اللهم صلی اللهم محمد و عالم محمد عوضوالله من الشیطان علیهن الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم عرض عدب احترام و محضر حقاین خانوای محترم تسلیت نیام فاطمیه خب ما دو جلسه قبل راجع یه سلسل بحثی رو با عنوان که آخر زمان شروع کردیم و در واقع بخشی از همون رواهت عهده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 رژیم سهینیستی و عجبه مقاومت و کشور گرفت صحبت کردیم امروز خود روی بحث تاریخی ترش وارد میشیم و عرض کردم من اینا از عباد مختلف بررسی خواهم کرد سیاسی اقتصادی فرهنگی آخر و زمانی روایی شاید فرصت کردیم تلصد آخرش بشه اما و روی هم کاملا واقع بینانه اونجایی علال ارز و روی زمینه خب یه بحث بسیار مهم بین سه یونیستا خوب دقت کنید این نکات نکات مهمیه یه وقت موجب برداشت غلط نشه خدمتتون آرز بشم بحث بازگشت دوباره یعجوج و معجوجه در باره یعجوج و من خودم حرف زدم شما حتما متعالیه کردید نقل و قولهای مختلف وجود داره خیلی دنبال گمان زنی های در مورد ها هستن ها کی بودن در قرآن ما سراحتا اشاره داریم به یعجوج و در ماجرای زلغرنین اشاره شده آیه دیگری باز داریم. اشاره داریم در با بخش قرآنیش فعلا اصلا کار ندارم شدارم دشمن بررسی میکنم تو میخوام میخواهم جستجیب کنم اونها جوج و ماجوج میگن یه رو به این شکل قرآن اینطوری مطرح کرده چرا این کار کرده این یکی از اجازه های قرآنه و در واقع از نظر شناسی شاهکار حالا به وقتش برسیم عرض می کنم توی سخنرانی حقیقت زلغرنینی خود راجبه یا جو ماجوج صحبت کردم اما اون فکر کنم اصلا 113 سال پیش بوده دیگه من هر اون که پیش رفتم معیدات بیشتری پیدا کردم بر اون فرضیه اینو بگم تو این سالها چیزی که نقضش کنه پیدا نکردم از قضا تایید به دیگر گوگل و ماگوگ یا چون در زبانهای سامی نعراب یه ج تلفظ میشه مثل چین و ماچین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 شمال قفقاز اگر اعنایت داشته باشید این منطقه این همین الانه ببینید سفیده این کوههای بلند قفقازه یک موانع طبیعی اینجا وجود داشته به این سادگی نمیتونستن بیان بعد از نزدیک ساحل میتونستن بیان که اینجا آمدن دربند رو ساختن دربند اسمش روشه خب که الان دیگه بالاتر از جمهوری آزربایجانه تو داغستانه در روسیه است خدمت شما آرز بشم که الان هم از سه هزار سال همین کاری میکردن سه سال پیش، 2500 سال پیش این میکردن تا زمان دوره اسلامی، یعنی در تاریخ مورخین اسلامی هم مکرر اسما اینا رو بردن از جنایتاشون گفتن، بسیار سنگدل از نظر مذهبی اینا شمنیست بودن، چند خدایی بودن اصلا اعتقاد این دینی که شما دارید ما دارید من این منطقه به اینو نهر نیسته اینو دیگه من نگونه خدا اصلا چی به شما بگم هم اروپایی ما با اروپایی سالها می جنگ داشتیم از قدیم جنگ داشتیم جنگ اون ایدئولوژیکه خیلی جدیه با قربی ها از 2500 سال پیش حمله اسکندر بگیری تا الان ما با اینا جنگ داشتیم جالمه ما وسط پول میدادن میگفتن این سقلعک اونجا زدید و تقویت کنید یعنی قبول داشتن که ما بر اونا هم خوبه همه به این نتیجه رسیده بودن حالا این فرضی بازیش یهجب ماجوج در آخر و زمان چیه؟ این درست بوده از نظر من در کتاب الهی درست بیان شده بوده اما این کلان مثلاق یهجب و کیه؟ این خیلی اون صحی نیست و الان دارن میگن که ببینید اینا همین روسان دارن با دست به دستبییکی میکنن میخوام اون پدر در بیارم یه برداشتی دارن یا اینو با نسبت میدم به اقوام مختلف با اونم فعلا کار ندارم دقیقا فقط اینو گوش کنیم این 5000 هزار 6000 کیلومتر هزار کیلومت از منچوری چین تا شرق اروپا قبلا اقوام دیگه هم اینجا بودن اونها هم زودتر سه هزار سال قبل آمدن به جنوب مثل سکاها خب اون آمدن تو ایران وارد شدن وارد بخششون وارد هند شدن بخششون به اروپا رفتن زبانین الان تایید میشه شما شمال هند و نگاه بکنید زبانشون آریاییه اما جنوبش دراویدیه زبان اصلی هندیا چهار هزار سال پیش همین دراویدی بوده آرام آرام اینا رو پس سدن نجادن هم سیاه پوستن یعنی پوستشون تیره تره شمال هند سفید چون اینا دقیقا از هم بالا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 یعنی آفریقا کجا، چه میدونم روسیه کجا؟ خیلی با هم فاصله داره. برای همین همیشه اینو خیلی نکته مهمی و باید جا افتته. کسایی که مدنیات داشتن، شهرنشینی داشتن، نسبت به افرادی که بیرون خودشون بودن این واژه رو استفاده میکردن. من معادل امروزی داره نمیخوام بگم شهر میشه. خب؟ یعنی تو عقب مونده‌ای، تو از فرهنگ به دوری، تو همچین چیزایی که استفاده میکردن. یعنی ما مدنیات داریم حالا خود همین که مثلا ارواح امش مدنیت الان داره هزار سال پیش از همین بوده زودتر یک جانشین شده دی سال پیش از همین بوده جنتیکی فامیلاشن خودش از همون ژنه بعضا به همان زبان صحبت میکنه موارد دارم حالا عرض میکنم اما خب مثل عرب عرب یعنی بیابانگر خب یک از عرب یک جانشین شدن درسته؟ باز به کوچنشین های خودشون به اشاره خوشم گفتن چی؟ جا عرابیون این فوشه <تصفيق> این بیابونگرد اومد یعنی فرهنگش هم شما داری چگاه میکنی؟ اشاره میکنی و گوش زد میکنی و میگی؟ یه چه کسیه مثلا جاره تو کتاب من سلاتین جلده صفحه صفحه 479-488 چاپ سنگی استانبول گوش کنید سلطان سلیم پادشاه عثمانی سلطان سلیم پادشاه عثمانی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 یه یعنی یه روز دیگه است اونجا اگه فقط 4 کیلومتر دیگه رو می‌دید مثلا میگن یعنی اینا از اونجا با قایق یا زمانی که هوا سرد می‌شده یخ زده رد شدن و بعد که هوا گرم شده موندن اون طرفو دیگه مثلا یا اونجا مستقر شدن و زیاده کردن خب در مورد که این لپسیش چه توضیح میدم اما یکی از وجوه تسمیه تور یعنی از همین عدم یک جانشینی و کوچ گرفته میشه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 چون این دین در بین بیابان نشین ها زبور کرد بین گفتن بین رو که ما پیانبر عرب عدنانی عرب قهتانی نیستن یعنی مستعربن زبانشان عربی شده چند هزار سال پیش اجدادشان حضرت اسمایل حضرت اسمایل پدرش که حضرت ابراهیمه مال و منطقه نیست همه می دونن. مادرش هم که حاجر مصریه بازم مالو منطقه نیست همه می دونن. و یه پدر مادر ایشون تو اون منطقه اون چاه پیدا شد و قبایلی که داشتن اونجا رد می‌شدن آب دیدن اومدن اونجایستون شد شهر مکه خب یه ما یه وقت اینا رو ما همه ها همه اقوام برای ما محترمان ان اکراماکم من در الله اصلا همه ما الان اینجا نشستیم اما که پیدا نمی‌کنید این خب دو همه ما اینجا نشستیم خدمت شما اسکان مشکیه اهل بیت رو تنمون کردیم یعنی احترام قائلیم برای چی دینمون اسلام دینی که از اون سرزمین شبه جزیره عربستان آمده و احترام قائلیم قطعا خدمت شما عرض می‌کنم حسین برای ما اهمیتی نداره فرق نمیکنه اما خود خب بر... ماجرا تاریخی خوب باید متوجه شد وگرنه همین مسیری که الان دارن دروغایی که سر هم دیگه می‌کنن به خورد ملت خواهند و متاسفانه ادامه هم داره دیگه سرزمین ایرها با الفنون مکان گیل گیلان ایران بخش از اینها کوچ کردن به اروپا ایرلند سرزمین ایران حالا تور با الفانون مکان توران ایران توران ایرج تورج این همینه این همینه اقوامی که از شمال شرق حمله میکردن پدر ایرانیان داره بود ازیاد میکرد چون او جای نداشت بهش حمله کنی کوچ نشین بود جمع میکرد چادر میبست پشت اصف بشه تو رو خدافز خب، حالا برو یاد پیداش کن اما تو شهر داشتی امید من از نظر فرهنگی و زبانی هم کلی بحث و محث و این چیزا هست که به بختش حالا از ارز میکنم حالا بریم جلوتر خب بله اینا چند خدای بودن یک دینیست تنگیری باوری پدر آسمانی شما خدای باز بزرگ آسمان همین الانم هم در زبان ترکی به خدا میگن تاره تانری تنگری تاره یعنی خدا از همون اومده مردم آذربایجان همین اول بگم مردم آذربایجان ایران به حتا ترکیه نژادشان آلتایی نیست ترکی نیست زبانشان ترکی شده طبیعی هست اصلا اختلاط نژادی نبوده چرا اما خیلی کم الان مطالعات هم میگم که دیگه اینا مولا درزش نمیره دیگه علم ژنتیک یه بحثایی مثلا علوم انسانی نیستش که تفسیرپذیر باشه هرچند اونجا هم شیطنت کردن اینا خیلی پدر سوختن این سه این رسته حالا برچون اینا تو منطق استپراسی ها زندگی میکردن خدای بزرگ آفریننده شون اولگان بود یه ارلیک داشتن که خدای مرگ بود و اون یه تیکه خدمت شما از کنم گل تو دهنش قایم کرده بود که نگ رفت زیر دریاها قایم شد و ما در شکی خواست بعدا هم برم مطالعه کنه نمیخو یعنی بیا آتیش خاموش کن فهمیده بودی یه تیه دانش قایم کرد دلگان دولگان اینو هم خاموش کن گلت دانش پرید بیرون میگن این مرداب ها و جاهای نمور و سرد و اینا فرید یعنی بدی ها کار ارلیکه یکی دیگه امایه ایزد بانوی باروری با کرگیه آی آتا آی یعنی ماه آتا هم یعنی پدر ماه پدر که یا خدای ماه گفتن ط جون خورشید آنا، مادر که اینم ایزد بانوی زندگی و باربری کویاش مادل خورشید بوده خدای خورشید بوده یر یر یعنی زمین تنره هم کمو یعنی خدای زمین هم که هم مشغوله کارهای ما بوده بندگانش میرسید اینا شمنیست بودن یک سری روحانی هانی در بین خودشون بود نوعی از روح پرستی داشتن اشیاء رو صاحب روح میدونستن بعد هنوزم که هنوزه بخشهایی نه در یبرین موندن از که چون تمدن خیلی خوب در محل رفته آمده و تعامل و تزار و به عقاد هنوز موندن مثل یااکوت ها هنوزم روحانیون شمنیست دارن و همین جنگیری و جادوگری و کارهای عجیب غریب وطیه قیمات داریم داری چند سال پیش حرف میزنیم خب همه جا بوده خیلی سرسیر جمعیت فراری بودن مغولستان تقریباً جم... مساحتش با ایران یکیه جمعیت چقدر سه میلیون مغایی که زدم بابای کل کره زمینن درآوردن جمعیتشون هم چقدر سه میلیون قزاقستان زاقستان یک کنیمیم برابر ایرانه جمعیتش یک پنجم ایرانه یعنی جمعیت ایران چهار رو نیم برابر بخوام در شما خب. جمعه خیلی کم چون اصلا منطقه منطقه زندگی نیست سخت زنیکه. او پژهش های جنتیکی که انجام شده هاپلو گروپ مربوط به اقوام ترک تبار باستانی هاپلو گروپ کیوه تبار مشترک بین هونها بومی های آمریکا و گوک ترک ها بیشترین شویه این هم این هاپلو گروپ تو آسیا مرد به کشور ترکمنستانه که 50 درصد داره از نظر شاخص های هم ترکمنستان مشخصه می‌خوره. یعنی اقوام شرقی رو شما در چهره‌شون شون میبینیم. اما در آزربایجان ما همچین چیزی به وضوع کور که نیستیم داریم می‌بینیم. من از غذا بارها گفتم آزریا به چشب روی درشت و معروفه خب آندراس روناتاس پژوهشگر مجارستانی چرا اینا رو انتخاب کردم؟ چون اینا معتقدم مجارستانی هم از ما واژه ترک رو یک واژه خوتنی سکایی تو ترکا به معنی نشین به معنی کلاه از کلاه میگه بعد ترک به معنی ترک شده بعضی میگن گفتن آقا اونای که بالای اون رای این که دیگه ما نمیشناسیمشون خب فکر کنید مثلا پیغمبر می خواسته بگه برید بیا آموزید حتی اگر در چین در مریخ باشد گفته فرمله کجا در چین خب اینا شمال چینه تازه خب یعنی من یه جایی که اصلا نمیدونم کجاست تو نقشه های هم کشی هستن اینجوری میگن آقا این سد زلقرنین و ماجوجه هیچ چی ننوشتن پشتش خب یعنی علاقمند کی کار اندیش اونجا بره کسی هم برای کشورگشایی اونجا نمیرافت اما که میجوشه به جزیره عربستان مثلا هخامنشیان رفتن مصر و لیبی و گرفتن دست عربستان نزدن و دیوونه مگه استونه بنویسیم تو این ریگزارها برای چی بدن گفت چی گیرمون میاد جنوبش یمنو گرفتن اون بغلاش جایی که چهار چیز داشته به درد میخورده استراتژیک بوده راهبرتی بوده کشاورزی داشته با اونجا کاری نداشتن مدینه که در اونجا به وسعت رسید یه روستای بزرگ بود واقعا یثرب یه اسره بیه روستای بزرگ بود بعد شد مدینت نبی شهر پیامبر این یسره بوده مکه شهر بزرگی اونجا بودم فقط با خود کعبه اونم حضرت اسماعیل رفته اونجا و این هم اونجا کسی کلاش میفتد اونجا نمیرفه خود الان هم من زمان که حج بودم به این یکی از این های عربستانی گفتدم شما به غیر از نفس سادرات دیگه چیه بعد صحبتا خورما اینجا چون واسه که خورما هم این هم مثلا اول نیستن عراق و یه زمان ایران خودمون بزرگین ساتو کنند خورمای جهان بودیم وقتی بهش گفتم هیچ چیه نمیتونست روی بند خود چیزی نداره خود چیزی باور نمیاد طبیعی یا خدا بر کسی یه چیزی میدونی حالا بهشون نفت داده عوض همه هر چیزی دیگه توتم اینا گرگ بود توتم چیه؟ توتم اون یک ارتباط روحی فرهنگی شما برقرار میکنی با اشیا با حیوانات خصوصا توتم ما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 یعنی اسب خزری هم شما می معروفه. معروف ازید تازن دشت صاف از این برمان بر برای همین از اینها خیلی واژه‌ها ها گرفتن مثلا پریدن به تلکی چی میشه؟ یعنی اسبیدن. همونه یعنی شبیه اسب میشه. شه آت شینا بنداز آتلماخ، آتلماخ، آت. خدمت شما عرض بکنم که هر چیزی که به اسب رب داشته باشه مهم بود چون حیوان مهم میشونه کمکشون میکنه طبیعیه هنما یه باز گوشیمون نباشه بیچاره میشین ماشین نداشت باشین بیچاره باشین مرکبش بوده تو جنگ ها نجاتش میداره و آتش ادوم یعنی اتوم آتش یعنی هیزم ات یعنی آتش کجا میشستن دور آتش جای میشه چی؟ اتراخ اطماخ بعدا اگه حتی سازه ای هم درست شد اتاخ همش طول اطه طول آتشه بعد این درک بکنیم از نظر فرانی خب اینا هی حمله میکردن میومدن یا به با این برخورد میکردن برای برای توسی جالبی دارم بعد تا عرض زمان اسلامی ترگیر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 چرا؟ چون وقتی تو تمدن نداشته باشی کار نکردی چون اونجا اصلا امکان شکلی تمدن نبوده یارو فقط با سرماگرمای خودش حفظ میکرده حتی گوش ات گوشت اسب میخوردن برای اینکه ارزش عرضش غذایشت دست نده گوشت اصبو میناختن توی چرمینه های چرمی چرمین میبستن به فتراک اصب به این جلوی زین اسبی برامدگی هست خب با تناب میبستن این میخورد به روان پای اسب توی هر که این آب می‌نداخت له می‌شد همین الان در خدمت شما عرض کنم اقوام که آلتایی هستن بنننتس ها هنوز گوشت خام می‌خورن یعنی هنوز این فرهنگ ایشون سارجا هنوزم شمنیست دارن یعنی اصلا این روحانیون عجیب غریبیون کارای عین فیلمای بایکینگا رو دیدید سریال سریالای بایکینگ جادوگری اونجا عین همون چی تو مایو برای اینکه فقط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 جوج موجود اینها بودن نه حمله میکردن بابای حسابات چرا در <تصفيق> خب الان اگه شما برید مثلا در شمال شرق ایران نگاه بکنید ما شهر سایروپولیس داریم کورکت اسمشه کور کوروشه صد بار گفتم بازم میگم چون تعجب میکنم زبانشناس شناس اومده اشتباه نوشته کورش ابریه کورش ابریه کوروس یونانیه یونانیه آخر همه اسمه اوس میذارن مثل اروپای شرقی ایچ میذارن مثل روسا که اوف میذارن درسته مثل ما ایرانی یای نسبت میدیم حسنی حسینی عرب اسم حسن حسین عربی آوردیم یه ای گذاشتیم فامیل باش درست کردیم درست شد این کوروس بوده یونانی کورس کروز طرف چون سی هم که خونده میشه هم سه دقت کنید یعنی که وقت سی نوشتن مثل کار کار انگلیسی یا مثلا یه کلمه دیگه بگید با سی شروع بشه که سلبریتی مثلا celebrate. خب این کورس شد چی؟ سیروس اینم یکی دیگه از اسامی کروش اوسشم هم که برداری اون آخرش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 مادرش ماندانا دختر اجیدهاک ماد بودن اینا اینا آزربایجانی بودن کودتا کرد علیه با بزرگ خودش اجیدهاک هاک عربا ندارن شد چی؟ زهاک خب علیه این قیام کرد با بزرگ خوش شکست داد دو تا شاخه رو به هم چسبون مادها و پارس ها دو قرن قرن به عربی یعنی شاخ و شاخه امت چون یه گروهی از مردم شد بالها کار نیم در ابری صاحب دو شاخه مده وله پرشه پرشه پارس این ابریش کرده شه گفته دو شاخه رو به هم چسبون یک حکومت جهانی عجب درست کرد خب که عربیش میشه صاحب میشه زو مثل زل جلال صاحب جلال الف لام تعریف قرن همون شاخ شاخه یا اونون مسنس زل قرن نه من نمیگه دنبال زیر بقل مار میگردن بدهید ششونه رو کنم خب یه تو کتاب دانیال نبی است انجیل قبول نده انجیل برنابار که قبول دارید انجیل برنابار هم بخونید ببینید ماجرای دانیال و حضرت حضرت دانیال علیه سلم و کروش رو ببینید این هم الان در منتها علیه شمال شرق ما کورکت داریم کور یعنی کروش کت یعنی چی؟ کده، دانش کده، جایگاه کند، کد، داشکند، تاشکند، سمرکند، جند، بیرکند درسته؟ این لفظم برخلافی که خیلی بیم لفظ ترکی، ترکی نیست چون اصلا شهرنشین اصلا الان علیکه از چیزایی که بحث میشه حتی اینا زمانی که اومدن عثمانی رو گرفتن حالا اینا داشتم توضیح میدم میگم براتون تو خلافت عباسی کار کردم یادن وقتی گرفتن شهر نداشتن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 آوردن چه کردن؟ دستگاه نظامی رو پس دادن دست ترک ها بروکراسی، کار اداری رو دادن دست برمکی ها، ایرانی ها سیاست هم در این خود عربا نگه داشتن این مسلس، آرام آرام شمشیر بر بقیه چی شد؟ پیروز شد و اینها همه ترک ها، همه و همه و همه سیاسی هنفی شدند یعنی بین چارف، شاخه اهل سنت، شافعی، همبلی مالک حنفی همه چی شدن؟ انا شما از ترکیه بگی حنفیان هن تا های چین همه حنفیان هن. این عمدی بود برای اینکه اینا مجزا با شافعی ها کردو شافعیان مذهب سیاسی اتخاذ شده بود اینم خوب فضا دستمون میاد وقتی قدرت دسته این بود عملا خلیفه رو هم به دست گرفتن که اون شعر معروف که براتون سبار خوندم میگه خلیفتون یه عربی شعر گفته میگه خلیفتون فی قفس یعنی خلیفه ما تو قفسه بین الوصیف و البغای میگه بین الوصیف و بغای گیر کرده یقول ما قالا لهو میگه هرچی اون دوتا بگن قالا لهو که ما یقول البغای همون چه که تودی توتی بگی همون چه توتی تکرار میکنه. یعنی قدرت دست بغای بغای که شما می‌دونید توقای، توغای اینا هر کدوم اسم حیوانات هم هست. حیوانات مقدس بودن. توی توتریمیزم اینا حیوانات تقدس دارن، روح خدایی دارن، مخصوصا حیواناتی مثل ببر، مثل پلنگ، مثل اون از این دست خب این زمان کورش میگذاریم میام یهو باید برسم به الان لازم شده. چون موضوع ما الان زلغرنه نیست. اینو حالا یه کتابی هم الحمدلله ما شروع کردیم داریم زلقرین رو می‌نویسیم دیگه. در اواخر قرن ششم بعد از میلاد این قبایل ترک تونستن یک کنفدراسیون درست کنن ده ها قبیله 20 تا 30 تا نمیدم چقدر با هم یکی شدن این تحت حکومت واحد رفتن و تونستن همون منطقی که بهتون نشون دادم در شمال ایران و تاجیکستان و چین تا اروپا رو بگیرن بعد دو امپراتوری شرقی غربی شدن چون تو مسیر مخصوصا این بخشی که شمال قفقاز بود چون مسیر اروپا بود بسیار اینا رو ثروتمند قدرت که داشتن اسلحه داشتن تاختن بلد بودن اومدن در جنوب شرقی اروپای مدرن روسیه جنوب اوکراین کریمه و قزاقستان اون طرف دریا در در خزر رو دره در مازندران رو پوشش دادن به نام گفتن خزرها این لفظ دریا در خزر هم که در استفادهش متاسفانه یکی از مسئولین سیاسی ما تو دهه 80 پذیرفت بین ما سال 70و فکرام پنج مسببه داشتیم که این دریاس بشه خزر و بشه مازندران ماده شده میشه حالا جالبه. مازندران هم نمیگی لاقل در کاسپیان کاسپین بگید که فارسیه ایرانیه این اسم روسا دارن میگن کاسپین برعکس کشورایی که خودشون الان ترک زبانن میگن کاسپیان ما اینجا میگیم خزر معرکه هم دیگه وقتی تو مسئولین ما درک فرهنگی وجود نداره نمیفهمه اینا بعدا اینا بعدا سند تجزیه طلبی خواهد بود همون موقع که بوموساو کردن ابو موسا بو و ابو کردن باید به این فکر میفته یه روز یه عربی رو این دست خواهد گذاشت چی بگیم خزرها های مختلفی تلفظ شدن توی اصل تاریخی کوزارها کوزاریان چازار خزار خزار گزر و هزار گزر همون معنی درستشه دشه گزماخ به ترکی هنچی؟ دولاماخ چرخیدن گشتن اینا جا نداشتن میچرخیدن همش گزر خب همین برادران هزاره ما در افغانستان از همین ها هزاره از همینه ببین چقدر جالب شده هزاره ها نجادن آلتاین. زبانشون چی شده؟ فارسی <تصفيق> آذربایجانیا، نژادن نجادن ماد و آزری و ارارتوی و هوری و کادوسی هن. اون منطقه رو دارم اصلا میگم که هیچ خب زبانشان ترکی شده مثل مصری ها دیگه زبانشان عربی شده و جالب مثلا پان عربیسم هم جمال عبدالناصر علمش شده باید تا اصلا عرب نیستی زبانت عربی شده اینا استعمار بشته ایناست بازم تاکید میکنم نه فارس بودن نه ترک بودن عرب عجم هیچ کدوم فضیلت خاصی ندارد ما میخوانم تاریخ رو می کنیم به کجا میرسیم و این برادر عزیز هزاره ما که امروز عضوی از لشکر فاطمیونه. داره تو سوریه می جنگه داره از حرم بیت دفاع میکنه رو سر ما جا داره برداشته بلتی نشود خوب. خزرستان آرام آرام بر شریان اصلی بازرگانی پا گذاشتن. و یکی از برجسته ترین امپراتوری بازرگانی جهان رو تو اوایل قرن و استاینا ساخته چون جاده ابریشم اونجا رد می شد اینا می که یا میدید حق چیزو راهو یا خودمون قارت می کنیم می گفتن ما خودمون پولیش می دیم قارت کنیم به قارتگری خزرها معروف بودن به ایشکی ره نمی به هیچ کس افتخارشون بود یارو مثلا یا انگشتری دستیم گفت نمی‌گم رفتم خریدم میگه می خریدم با سرشونو خنده برداشت رفتم اینو خریدم خب میگو آقا نمی‌دونی گرفتم یارو انگشتش هم قطع کردم درآوردم دستم کردم مثلا خب بعدش فزود دستشون شروع کردن بردگیری اسلاو ها رو میگرفتن برده مییافتن میفروختن به مسلمان ها این آقاییه که تو فتوحات بعضیشونو فتوحات سخنرانی کردن فتوحات غیر اسلامی <تص> خب تو اونجا کامل توضیح دم که اینا هیچ کدوم مورد تعیید احلویت نبوده اینکه محسن و موسی نیونم تو فوتوار چینا همه رو قشنگ پنبش رو زدم متقن و با دلیل اینا رو میگرفتن ها رو میگرفتن میدوند مثلا تو تاریخ اماده مثلا برنربوس نمیشته از منطقه ارمنیه از اونجا برای ما چیز بیارید اسیر بیارید من نمیشته مثلا اینقدر باید کنیز با شیرده می بودن یعنی میگفته تو سالی مثلا مثال میزنم 20 تا باید کنیز برمان من بیاره که همون موقع شیر میده خب اینا به عمر دایی استفاده میکردن بچه‌هاشون رو بزرگ کنن یعنی کاملا تا جای کل براخیر لفظ به منی چی برادر از این اسلاو میگیرن اسلاواکیان اسلاو شمالی داریم شرقی داریم غربی داریم جنوبی داریم جمعین نژاد همین روسا و همون منطقه هم که اوکراین و صربستان و چجن. همین چه و نه مشاین خدمتشون چه چهناله خب یه خورده باز فرقم داره اما همین منطقه خب که خیلی هم هیتلر با اینا چپ بود میگفت اینا نژاد دون و پستن بعد اینا از برد اینا ژن ما رو آلوده میکنن ژن رو آلوده میکنن بعد از بین خدا هم یه کاری کرد وقتی آلمانو فت کردن یه یه هفته رف قلم دادن انگلیسی‌ها ها از اونور ها از اینور هر کی هر کی دستش رسید یه آلی بله. اونا داد. هران باید بگردن دنبال جن خادرس جرمن یه گیره نمیاد این کارو بکنی بکنه خدا حق آدم نجات پرست خب تو صده ششم میلادی با ما تماس داشتن تو دوره ساسانیان عذیت کردن تو در لشگرکشی هراتلیوس رفتن به هراتلیوس کمک کردن علی پادشاهی ساسانی سال 661 عرب ها برای این مسلمون ها که از لشکر خود ایرانی ها هم استفاده کردن از ایرانی های تازه مسلمان شده تونستن سال 16-61 این رو واردار به تسلیم در دربند کردن اسمش هم کشتن دربند ببنده این رو بمونن همون بر پاشون این بر نذارن مجدده این تا جنوب قفقاز دوباره اومدن هی می اومدن تا این منطقه که امروز جمهوری آزربایجان نامشه محل درگیری های ما بوده منطقه اینجا کلی درگیری داشتیم. خلاصه بعد از جنگ های متعدد 720 تو ارمنستان شکست میخورن ناچار به عقب نشینی به شمال کوه های قفغاز میشه نقش بسیار موثری در عدم مسلمان شدن اروپای شرقی دارن ما, مسلم... ما عراب و مسلمانات به این تا اندونزی رو مسلمان کردن خب از این وقت قفل شد ماجرا. چرا چون اینا این وسط بودن اینا نه نمسلمان شدن اون موقع نذاشتنم اروپایی رو کسی مسلمان کنه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 همسایگان شمالی قلمرو بنی عباس شدند و امپراتوری روم شرقی شهر دربند ساخته شد فقط برای اینکه اینا حمله کنینال گوش کنید کت سیاس جغران نویس جغرافیان نویس یونانی میگه که دروازه خزر اسمشونه اسم شهر دروازه خزر قشای معلوم که از اونجا بود خزر رو شروع می‌شد با عنوان الباب شهر دربند اعراب بزنید. الابواب درها، باب در، باب الابواب در درها، در بند خزران، در بند شیروان، در بند خزر، بابل حدید. این خیلی مهمه این. حدیده هم اینجا نگهدید. تو زمین، জব্দ کردن. دم دمر کاپی، دمر گافه. در آهنی و ترکی. همین الان ما همین الان استفاده میشه. تو خود ما ما میم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 خلاصه اینا رفتن شهر آتیل و قبول کردن این مرز بسته شد طبقه حاکم اینا آروم آروم به نتیجه ریستن. این مهم تو این راه تجاری که داشتن با اروپا متوجه شدن پولدارا تو اروپا یه قشر خاصن شششون اینا رو گرفت نقشه رو کشیدن گفتن ما اگه مسلمون بشین این جنوبی ها ما رو حضم میکنن مسلمون ما ها. ما مسلمون شدیم. اگر مسیحی بشیم این قربیامون ما رو، یعنی اروپایی ما را هز میکنن بیریم چی میشیم؟ یهودی میشی. هم همبخشی از عدیان ابراهیمی میبینه چیزی نمیتونم باید چون دیگه نمیتونم باید نجس و کافر رو چون جمعه گفتن کافر کافر هم بودن با رو گرد میپرسته دیم چی باشه؟ خب گفتن ما و اینها.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 اگر میخواد بدونید در ایران هم بعد از حملات متعدد آثارش مونده من هم میتونستم بیرام نشون بدم اونتها دیگه <تصح> نمیشه سن <تصح> بچه مردم نشسته خدمت شما ارز بکنم منطقه خالد نبی در اثر حمله همینها آثاری ازش باقی مونده در استان گلستان ما استان گلستان یادتون در دیوار ساختیم که نیام ببین چی میگه بود 740 به اینو بنجامین فریدمن میگه پر است اینکه فالیک پرست شده بوده سال 740 بعد از میلاد بولانشاه پادشاه خزرها یهودی شد جورج ورداستی میگه سال 860 این همش پس میلاد میلادی دیگه هیتی از خزرها به قسطنطنیه میره و اونجا میگن میگن ببین یهودیه دنبال اینا مارو یهودی کنن ابر مرا معامله کنن چیزی گیر ما میاد یا نه یعنی ما یهودی میشیم ما کاسب شده بودن اون بوریک اونجا نشسته سر راه نشسته پول در می آوردند کاری نداشتن که ملت می اومدن حق و حساب میدن عوارضی بود کارتو میکشتن رد میشدن کارتام نمی کشیدن هیچ‌چی واسه سرشون میذاش میرافت خیلی خطرناک بود گفتن ما از زمان‌های بسیار قدیم خدا رو پروردگار همه چیز میدونستیم اما اکنون یهودیان ما رو تشویق میکنن که دین و آداب آنها رو بپذیریم عرب هم ما را به دین خودشان دعوت می و به ما پیشنهاد هدایا و عدوه میدن تو چی ای؟ تو چی می وسط؟ اینجوری بوده فرس یهوده اینا مکاتبات داشتن با یهودا حلاوی ابراهیم ابن داود و به یهودیت خاخامی گراویدند گرایش بده کردن مکاتبات خزر خودش یه سرفصل برای مطالعه خواستید تبادلات و نامه که بین نام رفته بین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 و تقریبا اکثریت یهودیان اون منطقه همین ها یه و شما درست گفته بودید یه عجوج و عجوج برمی و فتنه می و جنایت می اینها شدن یهودی های نازی کنونی یهودی ها دو گروه دست می از می شود از یهودی سفاردی و یهودی های نازی یهودی سفاردی های یهودی های واقعی ان نسل عزت اینا تو ایران هستن تو عراق بودن اینجا پخش شد یمن مثلا آره یمنی ها یه قصه دارن جدا سن. گفتم را فکر کنم را یه هم بعد اونو باز میکنم بحث شد بعد و همین فلسطین نمیدونم در دوره بنالعباس اومدن تو بغداد این یهودی های سفارادی بعد از اینکه که بنالعباس تضعیف شد آرام, آرام آرام اروپا قدرت گرفت رفتن به اسپانیا از اونجا رفتن به هلند، رفتن انگلیس. تو اروپا هم از اون بخش شفتن اینا سفارادی ها اما اشکنازی ها که امروز قدرت تو دنیا دسته اینا هست تو ای اسرائیل رئیس جمه... نخست وزیر اشکنازی میذارن یعنی اونان خودشون کلی بین این سفارادی ها بندگونه خودا یهودی واقعی ژنتیکی. حالا بندگونه خودای این ها همچین نیستن البته بگی چون هم صحیح نیست دارن ما یهودیت از صحیح بگم. بعد. اما اینا اصل قدرت پول دارا اینا دسته مثلا خود نتانیاهو به صورتن شارون اون کش قبل این مثل همین بود اون مال بلاروسه و میبینید اینا بورن حتی خاخامهاشون این کلاه خزدار رو روی سرش میذارن به عنوان لباس دینی اما این کلاه پشمی خزدار مشخص مال کجا بوده این دقیقا همون کلهایی که در قفقاز شما دیدید چه به سرشون برای میگه این مطالعات میان ای شما اختب... اصال فرهنگی زبانشناسی تاریخی جنتیکی همه رو کنارم دیگه بینید و واقعا امروز نگه عجو جام عجو جام یفسدون رو فلرس چیجی رو آدم دارم میکشه یک بحث اینجا مطرحه آقای آرتور کسلر ایشون نویسنده یهودی مجارستانی کتابی داره با عنوان قبیله سیزده هم ما دوازده قبیله داشتیم یه قبیله سیزده هم هم داریم که از ما نیستن یهودی شدن اینا یهودی های خودش مجارستانی یهودی مجارستانی احتمال ازم خزر هست خب اما این مطالعات جالبی انجامه بعدها های سری جنتیست رو من گفتم بررسی میکنیم مثلا سی و تا دندونی که از قرون وسطا توی قبرستونی مال یهودیا بوده رفتن کشیدن بیرون دندوناش هاشنا مطارد کردن دیدن با آبرایسیت اون میره تو اینا اثری از شامات لونت نیست هشتاد درصد 20 درصد چل درصد سیوهب درصد ژنا همه این طرفی این بنیاد سهیونیزم داشت نابود میکرد سعی سرینستان ما مال اینجاییم این و دوباره چی؟ برگشتیم اینجا این دروغره دارن میگن دیگه حالا چی شد بغیر از کسلر کسلر مطالعات شناسی تاریخی کرده آقای آران الحک محقق یهودی جنتیس زیستشناس تکاملی اسرائیل آمریکایی استاد دانشگاه جانس هابکینز ایشون نتیجه اینه که زمینی جن... عشقینازی منتج... ریشانه درکیب از ترکی، اسلوواکی، جنوب شرق آسیا و بخشی ایرانی است. خب، در هر حال غیر است. 38 درصد اجداد یهودیای اروپای مرکزی هم نه اروپا شرقی، قفقازی داشته. یعنی مال هر منطقه بوده. 38 درصد آدم کمی نیست و یعنی جالب درصد. تو اروپای مرکزی که اینا فکر میکنه اینا مثلا واقعا یه زمانی اینا فلسطین بودن، کوچاندنشون، آواره شدن فلان. نه این یهودیزه شده ها اتفاق عجیبه کرده چه روی این کار ببین واقعا اسرائیلی بره کار بکنه بعد ما دو تا تحقیق پنجش درست س انجام نمیید من میکن. من میرممثلا ما آوس چیزی اون نمی اینا یه کاری کنم من که امید به بذ بهداشتین این چیز ندارم. به این دانشگاه ندارم که این مطالات دقیق اینجوری انجام بدن. ما دسترسی داریم. اینا دیگه علم دهنای همه را یعنی میانده هر چشوری هم خواستید یه پژوهشگر بیارد تو تیم پژوهشم کور که بیاد بشه نگاه کنه بعضی از این،, این بدبخت و این علاقه بیچارش کردن وقتی نتیج گذار داد بیرون گفت من آدم علمی هم با این بازیاتون کاری ندارم نژادم برام مهم نیست اینی که هست یهودیان شرق و اروپای مرکزی نوت درصد کل یهودیای جهانن جهان هست جمعیتشون چقدر یعنی اون یهودی های تعدادشون چی خیلی کم هن. چرا احسن مسلمون. شد های آنبر اومدن به اون ایمان دقیقا در مورد فلسطینی ها این برعکس بوده یعنی چی؟ یعنی جنه اون جنی که این دنبال جنه سامی دنبالش میگردن و جن شامی دنبالش میگردن سامی همون شامیه خب که میگن فرزندان یعقوب علیه السلام هستن در کی الان هست مردم مسلمون عرب ساکن فلسطین که اینا میدید سوریه ها مثل مصر زبانشان عربی شده مثل فلسطین زبانش مثل لبنانی ها اینا واقع نست همون نجاد هم حالا بهتون فیلو باشه همشون ده حالا جالب این ترکیه یا این سحی نیستا دست به کار شدن دارن شر رو برزرم کن. خب آقای دکتر اشرفیان بناب جنتیست ایرانی ضد انقلاب درجه یک بیویه دراتش میکنن تهه اسمشم اله هم دلیگه بناب داره که بفهمیم مال بنابه که خودش خب ایشون اومد یه کار علمی انجام دادن جنتیسته شروع تحقیق میکنن از کمبریج بود بعد نتیجه چی شده نتیجه اینه که من براتون اینا از رو بخونم چار خط و خیلی خوبه اقوام آریایی اصالتاً ایرانی بوده و از حوضی 11000 هزار سال قبل در نواهی مختلف فلات ایران ویژه جنوب غربی ایران و در دامنه های ساکن بودن مطالعات جنتیکیشون اثبات کرد جمعیت ایرانی که با زبانهای غیر از گروه زبانهای هندورپایی فارسی تکلم میکنن ویژه جمعیت آذری ساکن در فلات ایران ریشه ژنتی مشترک با اقوام ترک زبان ساکن در ترکیه آسیای میانه قفقاز و اروپای شرقی ندارند چرا ندارند بخاطر همین کوها الان شما از مشهد تا تهران این همه را هزار کیلومتر میای زبان تغییری نمیکنه اشان می میفمیم مشهدی چی میگه می سبز سبزواری چی میگه نشاوری چی میگه همین تهران خودمونو 50 کیلومتر میری تو کوها زبان عوض میشه چرا؟ چون اینجا باز محل تردد بوده کوه نگه میداره این فلاته ایران همون جایی که تونست حفظ بکنه برمش. جنوب دریا در کوه شرق کوه شمالم هم دریا و کوه مثل یک ظرفی آقا جنی وارد نشده نجاتی وارد چرا شد اشکالی داره؟ نخیر نخیر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 توجه شدید؟ اما امکان ازدواج با اطرافهنشون هست باید آبا بچه از ازتا دن با کیا ازدواج با همین روایات داریم، امام صادق با همین قبلن اصلا فرشته ها دیده بودن دیگه، گفتم توضیح میخوای با اوشترش کنی؟ <تصفح> خون بریز رو زمین، گفت من یه چیزی میذارم شما نمیتونی این یه علا و مالا تعالیم، اغورم. بله ندارن و برعکس شاخصهای تمایز جنتیکی آنها منه افستیشون با سایر گروه های ساکن در فلات ایران به ویژه فارسی زبانان نزدیک به صفر است یعنی اصلا تمایز ندارن یکی؟ آذربایجان چون منطقه کوهستانی بود خیلی سخت تأثیر جنتیکی میبذیره کسی تو کوهها نمیره سخته برای کشورگوش های کار اشتباهیه دیگه همین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 میگن وارد اینجاش و اولین ظرفی که انسان ها در اونجا قرار گرفتن منطقه پیدا کردن برای زیست خیلی خوب مناسب همین ایران بوده. نچون ما ایرانیم ها دارن میگن وایکینگ ها هم از اینجا کوچ کردن رفتن الان کلی مطالعات ژنتیکی دارن انجام میدن میدن زبانشناسی دارن انجام میدن منطقه خیلی سال پیش میگن ده هزار سال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 یا یه فرهنگی میخواد اینو آدم میخواد مثلا برید سازمان مدفع فریاد بزنی سر سلینا او کجا دارید میرید؟ ما افتخارمونه ما دنیا رو متمدن کردیم او باشه الان هم افتخارمونه داریم از مستز افتفا میکنید میبینید؟ <تصفح> چون تو ناخداگاه فرهنگی دینه تو دفاع از مظلوم رو فضیلت میدونید نه او یا رو وحشیه که قارت و فضیلت میدونسته تو امانت داری و فضیلت میدونستی اون آدم کشتن و خیانتو یه صلات بفرستید سلام دکتر آریلا اوپنهایم استاد دانشگاه ابری اورشلیم زنه ایشون در برخی از اینها تا 80 درصد ژن ترک مغلی رسید راش کن از خفش کردن <تصفيق> چرا چون صهیونیسم زیر سواله نتانیاهو الان داره میره مغولستان باید دو سرزمینی مادریش میگارد بره, بره اونجا خب فلسطین کار داری تو تاش بری همو اوکراین اوکراین کجا ورده بس خود. بله این که این خزرها ریششون چی بود برخیم؟ یعنی قبایل هونها بودن هون گریه اسم میکنی کشوره؟ باریکاله گریه یعنی سرزمین بلگریه بلوارستان هم داره استفاده میشه آرام آرام به خاطر اینکه فرهنگ قوی نداشتن در اسلاف ها چی شدن حضم کامل شدن هیچی ازشون هم. اونی که اینجا بارده ده اصل وارد اینجا شده رو اومده اینجا خب رو که خودم دارم استفاده میکنم کنم اسمش شمشینیه که خودم دارم اونورم دارم اینجا هم دارم میوه که خودم دارم میگم اما یه انار میبینه اینو نداره ببین چی میگی میگه انار اونم میگه انار میگه این قزاتون چه انقدر خوشمزه تبریزی ها میگه کوفته کوفته ترش خود با لیمو یه کوفته اینو میگه مبانه طبیعی رو اسم میذاره لشکر کجا وایستیم دم اون کوه بزرگه گراداق دم اون رودخونه وحشی دل چای همین هم میری دل چای نداریم تو رو مسیر آده چای رودخونه آبش تلخه آق فلان گره فلان مبانه طبیعی رو اما شهر رو که نمیتونیش آب از کنه تا چه که بتونه اسم شهر چه؟ تابیزه. اسم شهر چه؟ م اسم شهر تو چی؟ اردبیل، دشت مقدس. آتزر بادگان پادگان، پادگان و محل نگهداری آتش. آتش آتشکده بزرگی، که در خراسان، یکی در فارس، یکی در آذربایجان. حضرت زرتوش اونجا به پیغمبری رسیده. توی بخشمون تو تاریخ میگن زرتشت آذربایجانی. منطقه که رفته وحیو گرفته کوه سبلان بوده. میگن چشمی ها چشمه های بهشت اونجا جاریست برای همین به اردبیل میگن دشت مقدس ارت ارت یعنی مقدس همین آرتین این اسامی از همین گرفته شده ویلم یعنی چراگاه دشت تقدس داشته برای زردوشتی ها اینه عموم این اسما نه اینجا بالای ارست اسم شرد چیه؟ دربند الان میگه دربند دربند نمرو نقشه به خدمتون نشون خواهم ده. بعضی از اینا رو باید برید توی این متون اروپایی ها. اینا ببینیم مثلا بچنگا بلایی سر اینا آوردن اینا سر راه بودن بعد هر کی از اروپا می‌خواست بیاد پایین باید حقصاو می‌داد دیگه بعد مثلا نقل کردن ببین وایکینگی که خودش بابای همه وحشی ها بوده اونا اون‌ها کلکوپرشون ریخته بوده وقتی اینجا رد شدن میگه ما که اونجا وایس دیدیم توی جمجمه دیدیم اینا آب می‌خورن جمجمه آدم جمجمه تعلیم خوشگلش می‌کردن تو جمجمه غذا میخوردن، آب می‌خوردن یه حساب کار رو بس ببین. میدی میدیا و این نکنی چه درری. بعد اینا مثلا از چی زاخته؟ از همین اقوام بودن. به بجاناک مسلمانان ناراحت چیز کردن. چه نداشتن؟ بجاناک تو جنگ ملازگرد به چنگا کمک کردن. اول تو به بی... تو سمت بیزانس ببینین هر کی بهشون فورمداد کمک می‌کردن.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 در ری یعنی الان وسط این کوه ها اونم بتونه میدم بهش میگن داریال اون... اونای که بالا میومدن بیمیگفتن داریال داریول دار یعنی تنگ یول هم یعنی راه راه تنگ راه باریک ما میگفتیم در الانان الانان یک قوم ایرانیه ایرانی تبار شماله چیزن انه در اوسیتیا زندگی میکنن زبونشون ایرونیه به زبونشون میگن ایرونی جالب کلی لغات مشترک دارن و هنوز سالم موندن به هیچ کسی من اینجا نمیرون بدبخت داره بگه خرد به چند من جگاره در حد همین دیگه بشینن دو تا کنفرانس ما در راه دوری یه چیز قشنگ دارم دست کن بدن و دستاجی خورا و نمیفهم که ریشه داره مثلا حالیشون مثلا تاجیکستان الان خوشحالن که مثلا شاخنامه رو بردن رو نمایی کردن خبر نداره که تاجیکستان این که بهتون گفتم جوری اسرائیل تو تاجیکستان داره کار میکنه که تو جمهوری آزربایجان اینجوری کار نکرد چرا شون جمهوری آزربایجان یه تشیعی داشتن یه چیز میشود اینا رو کرد. ایبس گرد. امام حسین ازشون گفتن پرچنم حسین ممنوعه تو جمهوری آزربایجان اون طرف تو تاجیکستان داره همین کار میکنه چون تاجیکستان اون منطقهی که شما نفوز گردی رفتی تو دل اونا دل. ببینید چی نمشتن میگه 463 سال قبل از میلاد مسیح درانجا همون را یک دری از صد آهنین ساخته شد که آتیشش نتونن بدن یه فلزی درست کرد که نتونن آتیشش بدن و قباد یکم هم شانشا ایران در آران چندین شهر میسازه یه صد آجری میسازه تو شیربان و دروازه آلانها یه همون در آلان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 یه برآمدی یه هست توی دریای مازندران فرو رفته خب اون منطقه بشه میگه ببینید خیلی مهمه دوستان این حالت داشته باشید اول بریم شهر کورکاتو رو ببینیم این منطقه که کرکت گوهر میشه یعنی شهر کوروش اول آمده این منطقه نگاه کنید از اینجا حمله صورت میرفت تا بالای ها رسونده امن کرده اینجا پس سده همه اینا رو اینجا آمده چیکار کرده بریم ببینیم خیلی انگیز واقعا و انصاف بوده به ادهی این مسیر راه به شمال بوده این کوهایی که شما بینید این راه شما من و عکسش باز بشه خودتون ببینید یه دشت خیلی زیبا این راه قدیمیه دیگه 3000 سال این راه بوده میرفتن بازرگانان همه از اونجا رد وقتی میرسه اینجا به نظرتون چی بینه؟ کی میرسه وقت غروب قرشی عجیب یه چیزات عوامل طبیعی رو ما می‌بینیم اینکه راه داره به سمت شمال میره دیگه درست نگاه کنید ببینید اینکه ایران من ای خود بچخونه باش این آذربایجان نقشه علانیمون اینکه به سمت شمال رفته اه این راه اصلی رو می اومده این سمت راستش دریا سمت چپ به مغربش این راه ببینید تساویش هست میتونید اصل عکسش رو ببینید خب چی می دیده این راه اصلی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 او. این کتاب موجزه نیست در موضوع زلغرنه داره میگه با ما میدونین بودوات کورا شده دقیقا شما خورشید رو میبینید تیه چشمهای گل برو میره ببینید از زمین گل میجوشه اینا چی؟ بالای این چه های نفت و ایناست گلش هم سر ها خیلی مهمه منطقه برای بشریت حالا میگم چرا بسیار مهمه اینا دو دستی دادن دست علیف نمیفهمن این کل فرهنگ و تاریخ و دین دینت مطالعه میخواد کابوشگری میخواد همه رو اسمار دارن به میبرن چه تاریخی رو صهیونیستون جو دارن شخ میزنن مشاوره الام علیف برنده اسرائیلی از اسرائیلی زن, زن فرستدن مشاورت دفتر در اونجا <تصفيق> فرنده شفر بهش میگه چیکار کن چیکار نکن برای مهم اینا اصالتشون قفقازی این عشکنازی ها سعی نیستای عشکنازی ببینید همی جزم میگه به منطقی میرن این گلار هم به تنشون میزنن میگن برای بیماری پوستی رو نمیدن چیزام هم خوبه گلفشان گلفشان چیزا میگن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 گل به انگلیسی ماد تمام شد. مادها یاز از وجوه چرا انقدر برای سنیست زبان شنوسی مانده؟ چرا انقدر برایشون اشیا عتیق, عتیق و عتیق بازی و این چیزا برای اینکه بتونن جهت بدن به تاریخ بتونن عراجیف بار که امروز آذربایجانی اصیل متمدن ما دنبال اجدادش تو مغولستان بگرده شول باش خاکستر به سرمان بود. <تصفيق> دشمن قوی نیست. اوج ضعف ماست. که ژنتیک اینو داره. ببین یوروبا اصلا میگم ضد انقلاب فلان به امان بود. خودش میگه آقا دیگه اینو نمیشه قایم کنه میگه به قول شوه از زیر میکروسکوپ این در اومده. اسم شهر رو به زور الان تو کن. ریختم کنار سی و یکی اشتباه نکنم روستا بود. یکیش زبانشون ترکی بود، سی تاش تاتی و تالشی بود. الان برعکس شده. الان تالشیان با ترکیه حرف بزنن. از من میشه بزنم ترکی ندارم عاشق زبان ترکی من بدونیم استفاده ما همه‌شم بشه تدریس هم بشه هیچ. هیچ. هیچ. خب اما این چه بخوای از این این استناد کنی که چی؟ همین بابای که رفته بالا چشمو جلسه داشته یه توییت داره. خب من توییتشو می‌خواستم بزنم خرد به خودکشی بابا و بعدش هم اکانت ما رو بستن 12 ساعت وقت نشد. رسما برمیگردن به مذهب شیعه میگه مذهب انگلیس ساخت همین الان توییچ داره مذهب چی انگلیس ساخت یعنی چرا به خاطر اینکه آذری های ما حنفی نشدن چرا خودشونو ترک نمیدونستن اینا شیعه شدن اردوغان نمیگه ترک میگه آذری آذریلر اونم میگه خود اردوغانم اینو میگه خب دو از غذا فرهنگ اهلبه تو ازاداری تو آذریابم یکی کشور هم دیگه با فاصله والا فرودگاه اردبیل که میری زده به شهر نام از تبولف یا از عاشقان آاشققان نداده هم چیزی خوش آمدید جوریه. رحلت از ذفسهحمل علیه اونجا تعطیل خودشون تعطیل میکنن بازار مازار همه رو تعطیل میکنم. این فرهنگ فرهنگو نگاه بکنید بعد بگگذاری چرا میگن؟ چون میگن عجب این مذهب مانعه حز میشه. باید اینو از بین ببریم کاری که تو خوزستان کردن گفتن عرب خوزستانی مادامی که شیعه باشد سمت ما نمیاد. یه هایی رفتن روی عرب شیعه ویروس وهابیت اینستال کردن شروع که کار کردن میفهمید اینا که هن؟ با کی جلسه میذارن چی به چیه؟ چه اتفاقاتی داره میفته؟ اینا به کجا یه چیک نمی کنید شما قبلیش ما بهش میگم اون آدم وطن دوست و من نوشتم واقعا اعتقاد من اینه اون آدم وطن نمیدونم بعد مراقبت کنیم افرادی که ببینین می... اینا نفوذی بعضی اینا رو میفرستن اینا کیان هماهنگ میکنه این جلسات رو اونها خیلی خلاصه این بسیار مهم بوده اون منطقه الانم منطقه گبوستان ببینید از زمین چه های گله سازه های اونجا درست که اینا مردم اونجا گله سرد داغ هم نیست. بریم ببینو نتانیاهو چی میگه؟ حتی ارتباط فلسطینیان با سرزمین اسرائیل در مقابل ارتباط چار ساله یهودیان با این سرزمین هیچ است دیدی خوششون کجا چار هزار سال چیو میگه؟ حضرت ابراهیم رو میگه که یه بحث موضوع جدای من مشهد یه چه سخنانی کردم یه ککی به تومون انداختم حالا اونم کار دانم انشاءالله اونم وارد میشم بحث خواهم کرد خب حضرت ابراهیم هم درست شما از نوادگان حضرت ابراهیم هستید اما در مورد اینکه که آقا واقعا دیجن یهودی چقدر خالصه آیا کسی دخالت خالت نکرده از که یهودیت تبشیری تبشیر رو کنار گذاشت بحث زیاد داریم خب حضرت ابراهیم هم زاگرست نشینده yeah. اورام اسم اورام همین هره یهودی خوش می اور میگه در اور به دنیا این منطقه اصلا به شهر میگفتن اور اورارتوی اورمیه اورامانات اوربال اربیل کلی خانومش که دختراموش هم شده سارای همین تو آذربایجان اصلا سارا چیز داره اصلا اسم ریشه‌دار آذریه خب و قال ابراهیم لعبیه آذر قرآن که اسم هیچکیو نمیره تاکید داره بگه اموی حضرت ابراهیم اسمش چی بوده آذا چرا اینو میگه نتانیاهو مطالعات جدیدی بر روی DNA ای به دست آمده از یک مکان باستانی فلسطینی در شهر عسکلاون همون اشکلانه اسرائیل آن چرا که از کتاب مقدس میدونیم تایید میکند اینکه منشأ فلسطینیان در جنوب اروپا است بعدو فلسطینیان اروپایی کرد که فقط شما اینجا نبودید خودشون هزار ساله گفت مطالعات چی ژنتیکی رفتم سراغ همین مطالعه ژنتیکی همین که این داره میگه رفتم پیداش کردم مطالشکی همین رو پیدا کردم همین همونداد بریم بشینیم با جنتیستا دیگه زنگ بزن به این آقا این یعنی چی اون یعنی چی فلان بعد میگن چیت کاره مختلف دخاله بیاد بگید که من نیم نگم چی به شما حافظ بگید خب اینجا این چی میگه نتانی آهو هم یعنی خداداد دیگه الله وردی نتان یهوا خدا داد کتاب مقدس به مکانی به نام کپتور اشاره میکنه که احتمالاً کرت امروزی است. هیچ ارتباطی بین فلسطینیان باستان فلسیون امروزی که اجدادشان هزاران سال بعد از شبه عربستان به سرزمین اسرائیل وجود نداره. یه نتانیاو برما شده چی؟ ژنتیک. اینا رو ببین. نخس وزیرشون توییت فرهنگی میزنه. داره هویت جعل میکنه.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 بیدونی که از نظر جنتیکی کرده ها یک تورکا یعنی ها تقریبا یکی ترک ها یعنی آزری تقریبا یکی آزری ها لور ها کرده ها یه جنتیک دار. اثبات میکن. کلی کلمات کهنشون که اصلا فقط با همین زبان قابل هجی کردن ها زبانشون فارسی دری بود اینا که حاکم شدن این فارسی رو کردن زبان صدا زبان آموزش، زبان بروکراسی آرام آرام گرفت و اینا بعضی جا همین الان شما مثلا بری الان با یه کورد صحبت کن ریشه رو تک تک رو ریشه ها می‌کنی می‌بینی میفهمی درسته؟ خب؟ اما متوجه نمیشه چی میگه. اینا متوجه نمی‌شدن. در... خب دری بری نگو. من نمی‌فهمم چی میگی. مرکز ببین الان دری شده دیگه اینا ببین فارسی دری اگه بخوای بری میشه همون خیلی شرق، شمال شرق میشه. اما الان میشه خب همینه اصلا مولانا بلخی بوده فارسی دری بلد بوده میاد میره سراغ شمس تبریزی که تو آذربایجانه، آزربایجانه نمیفهمیده چی میگه عدت مغلام در رفته بوده از شمال شرق به شمال, شمال شمس تبریزی اهل خویه و برمیگرده میگه که ولی ترجیع پنجم در نیابم جز به دستوری که شمس دین تبریزی مرا باید بیا بوری میگه این نمیگه بیا میگه بوری من نمیدونم بوری چی چیه مرا گویت بیا بوری که من باغم تو زنبوری که تا خونت اصل گردد که تا جانت شود نوری خب بوری انا تو چه زبانی زما زبان تاتی تالو همین میگه هم بوری ما زندرین بر برو هم. همین اندرسه بوده میکنه لکیه همینه هم خدا پدر رو شما میگه چی همین میگی نه لکی چی میگن بیا نشاسته خب ایران دیگه جون نشستن این نفره میتونه گفتیم جا آره بریم که اصلاا مازنندهره یعنی بریم آره بوریم. آره خب. خب این نفس استفاده می شده یه خورده اوAش این و میشه حالا نه که مثلا استانبولی ها الان غیرقه زیار رو میفهمن چ میگه میگهان ر های تو زمان با هم جلسه میذان همش مترجم دارن گوشی کنارشونه وال نه اصلا نمیفهمیم غیرقزی حرف ما یه کلاش نمیفهم اون لالو یه چیزی من واقعا نمیفهمیدم یه, یه چیزی ترجمه کردم گذاشتم تو توییتر نم لیزیا ناردل از این شی سیخ شگاسی خیش ترکی داره میگه قرهغیزی داره میگه اصلا مخه خت سو کاپی کاپی دارم چی چی گوش میشنیدم نمیدونم داره میگه گز دختر یا داره میگه گش زمستان نمیفهمیدم داخل پرتی میشنم هم زم نشم هم, هم, هم زمستون داره میگه هیچ هم نمیخورد تو من دیگه هم داشته میگفته Хоп, ит қапты, қатты қапты, қапты қапты. Қысқыс баса, қыс ба, қусшпаса, түтті, түбитті, түтті, түбитті. Көсе көсеге көрсетті. Көсе көсеге неше көсе көрсетті? Көсенің көсеге көрсеткен көсеуі 5. 10 бүгелікке 10 көбелік келіп қонды. 10 бүгелік 10 бөлек, 10 көбелік 10 кетті. Абат абдырағышпа, аба қамдырағышпа, абат абдырағыштау, аба қодыраңдағыштау. Омартаға балалар баrar, балаларда аралар талар. 40-да 40 бар, 40 арқарда авар қарбар, ал 40 бар. 3 kişi işi piştim, 2 kişi işi piştim, 1 kişi işi piştim. Şunun örneği, şunun örneği, şunun örneği. İle u sizdin هندی ها دیدید حرف میزنن؟ دیده دیگه میگه هندیه برگشت به انگلیسی گفت شما کشور ما رو نابود کردید you ما زبان شما رو پاتش خوندیم خب نمیشه الان شما مثلا ببینید چه جالب روس ها تاجیک ها فارسی حرف میزنن روس ها فارسی هر... یاد میگیرن مثل که حرف میزنن مثل تاجیک ها حرف میزنن این اثری که ژنتیک فک و عضلات خیلی نامفصل من چی بگم به شما دنیای بغزاری ها آره واقعا الان هر کدوم اینا رو ما میگیم زخمی می کنیم فردا یه نفر میشه توییت میاد ایشون این اینجا ار ایگو بالا. اینا رو کجا ببینم زاینیستار من میدونم چیکارش کنم این اولاقا رو نمیدونم چیکارش میکنم خب کاری ندارم برسون کنم پس این چشمه های گل این شهر در بند این اول ببینید کجاست این شهر دروند این همون شبه جزیره آب شُرون ببین این کوه ها تا لب دریا اومده بوده ببین اینجا که کوهه میبینید دیگه میرسید به ساحل چون این دیواره هست میبینید ما بریم اینجا عکساشو بزنیم آنلاین خودمون ببینیم که پادشاهان ایرانی و ایرانیا همیشه اینو چگاه میکردن؟ بازسازی میکردن چی اینا حمله نکنم بلا؟ بزن بزن بزن مردم بیچاره میکردن آرد میکردن خب حالا این آقایی که بلند شده اومده اینجا تو این منطقه از این چشمه های گل رد شده خب چه از نظر من حتما انسان بسیار شریفی بوده و ما کوروش قبل از آشنایی با حضرت دانیال یا آدم بعد از آشنایی با حضرت دانیال و توحیدش، یا یه دیگه است. اونم که ی آدم بدی نبود قبلش. مثلا حضرت سلمان قبل از آشنایی با پیامبر بد آشنایی می‌کرد. قبل از آشنایی با پیامبرش مذهب باطلیه. بعد از آشنایی با پیامبرش میگه من اهل البت. هم همینه. کنار حضرت دانیال قرار میگیره ببین خدا تو قرآن در چطور حرف زده از بعد ما اینو انقدر ول بکنیم این ماجرا رو که امروز نگران باشن آبان اومد. الان نرن سر قبه کونش نه چیکار؟ ما خیلی بی رگیم سکته نمی‌کنم دست اینا. بس کاره فرهنگی کار بلد نیستن کارو دست ما هم نمی‌دن دیگه. یعنی بهش میگه آ بلد نیستی بوشو چرا ما انجام بدیم؟ نه تو قدرت بو همش مال خودت من میرم فقط سخنرانی می‌کنم. خوبه؟ خب. حالا این آقا چه اومده اینجا آیا اثر دیگه هم ازش مونده که صلاتن یه رودخونه اینجا هستش به رود کورا. یعنی بله همین رودخونه. این رودخونه اسمش هم رود کوروش اونجا هست. گفتیم این کورس، کوروش قبلش کورس و کورا. مثل رود کوور که محل زادگاه خودش در جنوب غربی کشور. خب اون را با چی ساخت؟ اون صد دو. بریم ببینیم کجا ساخت؟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 نفر نفرم این بالا میجاشتی دیگه میدونی که یه نفر تو کوهستان یه تیرانداز <تصفيق> یه لشکر اسیر میکنه خب ببینید از عکساش هم بزنیم لایف خودم ببینیم میکنه هنوز بعد دههای منطقه ارمنی شدن مسیحی شدن اما این سازه ها منطقه عجیبه کوه سر به فلک ای داره ببینید هنوز حفظ شده خب اینم که تنگه داریال همون در آلانان همینجاست خب گفتیم این صد با چی ساخت؟ باریکلا و یک سرچ ساده من انجام دادم زده شدم دیدم ما آنجا یک منطقی داریم به اسم درمبون درمبون بون بون یعنی ریشه خب این یعنی از ریشه زمین چی در میاد؟ درم یعنی محکم فکر کنم دیگه معنی شو دقیقاً چسبیده به هم معدن آهن و آهن مس و معدن مس. چناره در منطقه که امروز بهش میگن داشکسن اسم امروز ترکیش شده معدن داشکسن ببینید چقدر نزدیکه از همونجا ببین شما زمان قدیم کامیون و هواپیما و نمیدون هم چیزاییست برداشته که اصلا معدن داره انجام شه. این اینا مردسته پدن مثل درنبون نگاه کنید خیلی کم ولی من اصلا فاصله نمیرد برو ببینید همین هم داره برداشت میشه و وقتی من نگاه کردم به اصر مفرق برمیگرده برداشت ازش یعنی همونجا باز آثاری پیدا کردن که انسان از اونجا برداشت فلز انجام میداده ببینید شما نمیتونید بولنش میری از 500 کیلومتر اونور تا مصر برداری بیاری که با همون ابزار که دم دستت بوده یه صد گهمیجا درست کنیم گفتم خب آتش میزن گفت آقا خب فلز استفاده کنیم فلز چی گفت آقا خب اینجا معدن آهن گفت خب فلز نرمی که میشه به این آهنا اگه مس نبود فلز نرم دیگه ای بود شاید از اون استفاده می چی میگم گفت گفت معدن مسم داره گفتم همینجا درست کنیم تا من هستم اینجا دستورشو میدم پولشام میدم سربازشام میدم بسازید که دیگه شر این برات اومد قرب و مغرب الشمس درست کرد و شرق و مطلع الشمس محل طلوع میگه بر مردمی رسید که جز خورچیتی چه بالا سرشون نبود یعنی اینا خانه نداشتن خب بعد ما اینا رو میاریم کنیم بریم خیلی واقعا شاهکاری ما خوب. مثلا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 طلا داره و بسیار هم به همون منطقهی که نشون دادم نزدیکه یعنی یکی از همین تا معدن همونجا این پر آهن و مثل افلز ددم قرآن میوید چیجوری شای کرد یک فرد عربی 1400 سال بید تو شبه جزیره عربستان یهویی شروع میکنه چیزی رو میگه از چشمه های گل اونجا از معدن مثل آهن اونجا از ش... چین <تصفح> مرز چین اون طرف تو شرق خبر بده بعد این عبارات ان دقیق استفاده بشه که ما باز برداشت های مهدوی ازش کردیم اون حقیقه زلغن خودشه دنیایی من گفتم اصلا بردن بحثا نمیشم میشه جو جزء برای همین میگه یو تونی صفتو به صورت ممستر میتونی یه دونه سوره شبیشو بیار نمیتونی بگی یه در آنه واسه 60 معنی بده فیزیکیش درست باشه چیش درست باشه تاریخیش درست باشه مذهبی‌ش درست باشه بعد آهنمس باز چه استفاده کرده؟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 و گنجه پرگنج در آران سفاهان در عراق شمال رود عرض هیچ وقت اسمش آزربایجان نبوده اسمش چی بوده؟ آران شروان روزی که اینا اسم اینجا شدم میذاشتم آزربایجان تو میفهمیدی که نقشه برای جنوب داره. اونجا آرانه سفاهان یعنی اسم عراق یعنی کجا؟ عراق اون دشت تا رو گفتن. الحمدلله مصطفی قرن هفته قرن هفته. ه ببین قرن سال پیش. خب یعنی کاملا یه اسلام اومده بود و ترک شده بودن و خیلی زمان بنو العباس نه آروم آروم مسلط شد حالا جالب و خوبه چیزی بهتون زبان شناسی بگم که ببینیم چقدر اونجا ریشه داریم به آتش بهشون میگن چی؟ انگلیسی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 خرقان یعنی معدن بزرگ چشمه بزرگ خرگوش خرچنگ خرگاه آره خره همه چیز فوش نیستی من بزرگم بزرگم خرپول خرخون <تصحیح> ول عرب و و نمیتون تلفظ کنن ما و میگیم اونا فه میشنن. لبتون نود با هم بخورم تلفظ و که درست بشنمن بعد بگی هو. نماز ما رو میگن قلط این رو میخونن لم یلد ولم یولد عربات ها دبل دارن وی ندارن ورد، ویکتوری ندارن نودو خواهم دوتا و دارن درسته؟ ما هم و میگیم وی میگیم وی رو ما نداریم متزقان فارسی شما اینا ها شاید بگی خیلی بگوی باقید یارو دیونست و به وی که نزدیک تره تا ف اون اینجوری میشنبه مثل اینکه مثلا ما مثلا این پاکستانیا دو تا بی دارن هندی دو تا بی دارن دو تا بی دیگه چیه؟ یه ب میگن یه ب من فرق داره دو تا ری دارن من باشون صحبت کردم مثلا گفت نه اینه درست ناراد میشون یه معنی دیگه میده خب حالا اینا خوبند ها که اصلا سرسام میگیره چینیا صوت توشون مهمه یعنی ما چهار تا معنی داره ما یه معنی داره ما یه معنی داره ما میگه پایین یه معنی داره مادر کنف اسب ذر بزدن <تصفيق> سرما بخوری اونجا زبونو تغییر میکنه توانه <تصفيق> اونجا به ننه یاروی دیگه بگی دیگه می <تصفيق> اسبیم اسبی چیم طب. و و ف میشنبن. ول میشه فول اون سه یونانی گرفته به زه تبلیل شده فلس فلس والکان یعنی مدن فلس یعنی هنوز تو زبان هندورپایی دار استفاده میشه یعنی عراب هم رو از ما گفت. چون اصلا ما اولین امپراتوری بودیم کار با آهن و صنعت و این چیز به صورت ویژه تو این امپراتوری ها اتفاق مفته تو بعد چرخ برای ها درست بکنی تو باید نبینم چی کنی راه شاهی درست کردن، آوردن خدمت شما عرض بکنم چپارخونه گذاشتن.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 یعنی که پیغمبر داشتن بعد از او تا 500 سال بعد از کوروش هم بین یهودیا پیغمبر اومده تا 500 سال بعدش که یه آخرشون حضرت عیسیه یکی از آخرشون بعضی‌ها بگن بعد از عیسیام پیغمبر دیگه درست این درسته خب خدا می داشت نه ما مسلمان‌ها دیگه چهره امام فرستادینو حضرت علی رو ترور کردن شادرسن دیگه نمد ما میفرستید اینقدر اینا احمقون است به همین حد احمقون است متوجه شدید برشون گردن کو پاشید به شهر خودتون برید به دمو جعبادتتون اگر مگه نمیگید مال اونجایی بری چون اون مردومی که اونجا بودن بعد حضرت عیسی آمد بخش قابل توجهی از یهودی‌ها چی شدن مسیحی شدن ایمان آوردن به حضرت عیسی برای همین گفته اینو بعد ببریم یه بلای سرش بگیریم همه دارن بدین این درمیان چرا منتظرش بودن بعد پیامبر گرامی اسلام آمد اکثریتشون مسلمان شد یعنی یهودیایی که مسیحی شده بودن حالا مسیحان چی شدن مسلمان شده وگرنه آقا سوریه رو شهرهای بزرگ و مهم مسیحیت بوده این تردیدی نیست همه میدونیم نزدیک اخبارش بله تا دلتون به خود از اینها هست مثلا قلعه داریو در الان مرز ترکیه است. اونجا رفته شهر ساخته برای اینکه با رومی ها میجنگیدن اونجا جو. اصامی مونده کسی نایی باید یه مستندی بستازی او پادشاهه رومیار رو برداشتن آوردن اینجا والیرانوسو به وادار به تعظیمش کردن جلوی پادشاه ایرانی یه صدای رهبر مملکت دارامندگی میگه بابا ببریدنا به دانش آموزا نشون بدید که بفهمن غرب در مقابل ما زانو زده یه نقاری برای من نقل میکرد, میکرد, میکرد رفته بودیم یونان یه نقطه‌ای بردن یه بیابون خالی گفتن اینجا همون جایی است که سپاهیان ایرانی اومدن اینجا از ما شکست خوردن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 این برنامه الان نیست برنامه این 1860 این کار کرده 1860 میلاده چند سال میشه دیگه خب اون زمان این آدم اومدن و اون تیکهی که آتا ترک از رزاخان گرفت قرسور رو گرفت و منطقه نخجوان رو چسبونن به ترکیه فقط منده این زنگ زور حالا شما میگی زنگ کار نظامی شده میفهمیم صد و خورده ای سال براتون نقشه دارن اینا باید روسیه را اون موقع انگیزششون بود به هند نرسه الان انگیزه دیگه ای دارن میگن بین روس ها ایرانی ها نباید رابطه باشه باید اینو کات کنیم و این فکش رو فرهنگو بیاریم بالا کیا دارن کمکشون کنن انگلیس اسرائیل دوباره یعنی و دوباره برگشته همیدی اجوج ماجوج همینان همین سایونستان که دوباره دارن دست میزنن روی اونها میخوان یک کشور توران نامی مثلا درست بکنن از قزاقستان مرز چین تا ترکیه که بین روسیه و ایران این فاصله بیفته این سه تا کشور با هم نزدیک نشن ایران روسیه چین. چین هم که توضیح دادم قبل مثلا افغانستان اینو چیکار کردن خیلی عجیبه مستقیم با دفتر نخست وزیری وقت انگلیس کار میکرده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 ساختن و پرداختن و اینها دارن دامن میزنن خب خلاصه منظور چیه؟ این که اگر ما از غزازری ها باید اینجا پیشکام بشه این آقا ما زمان ترکی روست بله ارتباط با کلی آدم هن. زبان زمان قشنگ هستن روزر فقط و ترکی روش کنید <تصفيق> خب حال کنید اون اگلم سوز اثر از خود فارسا گوش میکنن گریه میکنن شاید هم اصلا متوجه نمیشن یه جایش هم چی میگه سوز داره این زبان هر زبانی یه ویژگی خاص خودشو داره اصلا به معنی خوب و بد بودن نیست بخواید من الان میتونم ده سال راجع به زبان ترکی برام اینجا حرف بزنم که هیچ پان ترکی گرد پای این مطالب نرسه خب مونتا ارزمینی که بله زبان ترکی توترس بشه حتما این کار باید بکنیم اما برای چی برای اون تمدن انسانی و فطری خودمون باید زبان ارتباط داشته باشی باشه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 اینجا از شما مراقبهش کنید. اوکراین چجوری زادن؟ اول فرنگیش بعد تنش سیاسی شد. اونا میگفتن ببین از یک نژادن همشون. عین همین اتفاق ما. زبانش هم تا یکیه. گفتن شما نژادتون فرق میکنه. این روسا فلان 15000 تا روس کشتن دارن. اوکراین چی شد؟ آخر روسا هم میکن دیگه حمله که کردن یه جوری از هم کشتن، دیگه فکر کن الان دیگه چه قصه ها خواهند ساخت برای صد سال که نست شما دیگه خون ریخته شد دیگه خون ریخته شد مثلا شما تحساس بودن گسل ها رو شما میبینید مثلا چه میدونم کوچکترین حرفی در مورد بعضی از قومیت ها که میشه که نباید قو... توحید نباید هیچ قومیتی بشه آزربایجان... از توی ترک های ما علم. ترک به منی همین آزرواجان خودم دارم میگم بابا چه بزرگانی چه مفاخر اومد علامه تبا تبایی علامه جعفری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 فیزیکی سر سخت ترین رو بردن اونجا قرار گرفتند. این آغاز زر و ما اینجوری، اما یه سر ایران است. این هویت ایران، مغز ایران این درسته؟ جو بسیار مهمه. الان همون نقشی که چند سال خیلی عجیبه که می دوباره برای ازدواج بدم گرنه دوباره الان فعال شده، میخوان مرز زنگ رو بگیرن. حالا مرض زنگشون آسان بگیم 20 کیلومتر 30 کیلومه هم گرفتن. یا اصلا تو موقع نگه داشتی. مسئله نیست. مسئله اون هموطن جمهوری آذربایجانی ماست، هموطن ماستون. اون <تصفيق> ایرانیه که امروز منو تو رو دشمن میتونه. و فکر میکنه نسبش به مغولا میرسه. محل اختلافه. آموزگار بهشون میگه، خب. حالا من ببین نگاه کنید حرف زیاده، اینا نمیشه خیلی قطعیت داد. ببینید چرا آسا الان اگه تو بخوای تاریخی رو مبنا، چا متون دینی رو بخوای مبنا قرار بدی حضرت داوود چه جور آدمی؟ خدا به دادش می‌رسه. تو تورات میگن باز زن شوهردار زناکه. تورات همین الان هست. حضرت سلیمان بوتینمون نپرسید میشه. تورات میگه. مبنا قرار میده. آقا قبر چه سوال؟ امیرالمؤمنین قبر متأخ زمان امام صادخی. زمان مخفی بود بارگاه هم فرض کن برای اینکه می رفتن ت روز میکنن فرض بفرمایید اومبیفتن که فرض بفرمایید نمیشهد مخفی میمون درسته همین الان به غیر از یعنی نجف میذاشتی کنا جای دیگه ای مد داریم که قبر ام میدن معروف هاشه نه مزار شریف تو افغانستان همین روز احتاتمالا بلند می میشهید میفتیم اونجا ه ذهنر سلام اللهله ها یک قبر دقیقا در مثله خب حالا فارس ما سوریه نبود کجا تو زیارت بود مشخصه که میدونید اصلا میگن اون مصر قوی تره حالا میگن یه عالمی شروع کرد داشت تحقیق میکرد که کدام کی درسته شب از زینب تو خواب دید گفت خب. حالا دو جا منو زیارت میکنه شما مشکلی داری گفت نه خیر بله شد همش کرد خب ورگه چی شد پسیلی من بعض از دوستان یه جوری میرن تو تاریخ مطبع خشخاش میذارن انقلاب ما این فجار نور بودیم مال کی؟ امام خمینی تا یک جستند برای من بیارین امام جای گفته با جایی نوشته بستن به امام الان رسانه بنیاد حفظ و نشر آثار امام سیده سن آقای خمینی حرم همه چیز سایت اینترنت، فلان میشه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 برامون این مایه ننگی بود سآل کلیدی زرتوشتی ها خاک آلاینده میدونن جنازه رو میذارن روی استودان بالا تپه طوری میذارن پرنده ها میان چیها میکنن این ها رو میخورن پرنده اون پرنده ای هم که برمیدارین استخونشو میخوره نماد آخرت و معاد و تقدس شده اسمش هما. چه؟ هما که استخون میخوره دیگه برای چی میدونم؟ بعد اگر اینه من سوال دارم پس چرا قبر کورش پاسارگات برای یا ایشون دیگه زرتشتی نبوده که دفن میکردن؟ خب، یا بگیو قبرشون چون نیست که اینجا گفته ببین؟ اینا عرض میکنم میان رشته مسائل جامع الاطراف باید از همه جهت بررسی بشه خب، و؟ اسم رودخونه مونده اسم جهان مونده اسم شهر مونده یک جریانی میخواستیشون رو حصف کنه و یک کوروش دیگری رو به شما مرد اون کوروشی که یهود اگه میتونست کسی بر خود حبس بکنه دانیال و یه پیغمبر سالم تو تولاد با من نشون بده بگم بهتر یه پیغمبر سالم نده بله اون کوروشی که نقل میکنه یه کوروش دیگری با اون واقعیت چه فاصله داره هم بلایی که سر پیغمبر خودش اومد سر حضرت عیسیرا می‌خواست با صلیب بکشه دیگه کجا می‌شه را دور می‌ریه لازم 500 سال بعد از کوروش دیگه بدیهیاته دیگه بهل‌ها نمیشه نمی‌شه زلقرنه تو این سفر به شرق سفر به غرب نمیدونم چی آقا همه اسمش هست دور استفاده میشه در چیزا میگن ایتالیا میگن چیرو آها خب همین دوران هم اسم داریو اسم دارن همین الانو تعداد زیادی آدم اسم گذاشته شده تو روسیه خب همین الان عرضو فارسی ما نمی میم کور پسر امام صادق علیه السلام میگه کان قلامون پسری بود. پسر يعني غلام. يعني داریم که تو قرانم میگه میگه به او با بشرنا و بشرنا بقلامن بشارت دادن به یه پسری بهش می میگه پسر بود خود یعنی چی پسر خب بعد میوکن عجب چقدر دقیقه یه جا دیگه که او بنده خدا بود ابن زهاق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 این خدا در قرآن چطور با او صحبت کرده؟ بله ز داشته که از کلی داشتن یوتیوب کجا نداشتن. ساعت ۲500 سال پیشه تاش خیلی را دور نرم داشیار نگاه کن اسم اسلام نیست؟ نه۲۵ بابا وحشتول آدم میخوردن یکی بلند شده گفته همگر نخورید نه این آمد آنجا مثلا گفت این همه خدا راحت به بپرسید کدوم کدم گفت اونجا بودی. یه سنگ نوشته کردی؟ اینو کُرش نوشته به داریوش مثلا بعدش اونش همین از امام خاطر نقل می یه بابا نبود عوض میشه خاطرات اون چرا نقل میشه ابوهوراره چقدر پیغمبر خاطره نقل کرد 2500 دین 1400 سال پیشه انقدر که صدای همسر پیغمبر جناب عایشه در میگه بقولا ما سابین که تو داره میگی ما چه نشدیم ما با پیغمبر تنها بودیم تو با پیغمبر تنها نبودید توهین چیه همسر پیغمبر بابا منابع مستند اهل سنت دور، ولی تو مشغول عشق بود؟ بودی همینجوری جواب دادی. قلب برود. اینا رو بینید؟ تاریخو چجوری بررسی می‌کنی؟ حالت آره خوبه؟ هدف لطفا که ایرانی‌ها هویت نداشن. تو به ایرانی می‌بینی. کدوم میرا؟ که میگه من به جداشم کرده بگه جداشم عربت بگه جداشم توکنان دیگه جداشم بلوچ بگه جدا جمع ایرانش کدوم فرهنگ فرهنگ چی شاعرات رو میگی ببین مولبیریش اش دیده دیگه الان اون رو دارم چش میسام. اواب و علیسیین هادارن می دوم فرهنگ آدمیشه چی تمدن آدم میشه چی؟ میشه مفاخرش ابو علی علیسینا دارن کشمیرن میرن دارن کش همه دارن کشمیر. می نون لواش آرمنی رفتن ثبت کردن صلات چیزی را رفتن ثبت کردند. ورزش شد. چهوعان تو جمع روز آبجدان ساز موسيقی تدارم می ران ثابت می کند. باعیرای یازده امارات رفتن ثابت کرد. چی ازت میمونه؟ خب هر چیزی رو بهم می بقشه وقتی که تو به ده شویر راهنمه تو ثبت کردن. خب میخواد بگه نه چیزی از خودشون نداشت. یتشار خود من کسی هم نداری. من امروزی دانشگاه فرهنگی داشتم سخن که گفتم بابا هیچگونه نمیتونید حصف کنید من که زبانتون رو تغییر بدید دان چرا؟ گفتم بدیهی این مسئله این رو همت داشته باشید؟ آره براتون میذارم تا از آن ببین جالبه ببینید چه عراجیفی گفتون نیتانیو تی ایچ تلفز میکردن سه او تی ایچ ثه عربا سه سه نقطه رو اینجوری تلفظ میکنن ث. و برای همین هم سه خونده شده هم ه مثل هند سند مثل هفت سبت فهم که پیل پیل فیل خیلی سبت شنیدی اما هفته درست شد؟ حالا بریم رو های آقاین اروپایی سبت ماه هفتم الان میگه خب ماه نهامه که بله چون اون موقع آقل بودن از اول فروردین ماهاشون رو حساب میکردن ما به خاطر نگسی عزتیست که اومدن جعل کردن که تو دو ماه میشه اضافه شد، به امان تا اضافه شد. دو ماه اضافه شده ماه نگم. میشه چی سوه ده دس امبر ماه تهم. آنها من خودم برای که میلادی و شمسی قطع نکنم، اینجوری دمو کنم. اکتبر هشت اکت اکت پاوس اکت و شما ماهاتون رو نه آمبر ماه هم. ماهاتون، روز شماریاتون اصلا فرهنگ اصلا مجیک، بزرگ، مگاه، همه هم لفظ مغه خب دشت مغهان کجاست؟ آزرواجه خب چی بری بگی به مجیک یعنی دانش مربوط مغه ها عدبیات بروکراسی و سلطنت اون موقع سلطنت بروکراسی الان بوده دیگه دموکراسی که نبوده که به این معنی که الان هست خب ای کارای نانی ها میکرنم از بازی دو با Your Majesty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 یعنی عبادتگاه بر باب مفعل بردن عربا فکر کردن مفعل ازش زگت سجده بیرون کشدن همین الان عربا میگه مسجد خب دین کلمه دین رو من توی تویتر هم به تویتر مفصل بسیدن دین کلمه فارسی خب وقتی دین حکومت بروکراسی سلطنت و چه گذاشتی برای مردم به چی آنها که با کار فرهنگی در جا به مقصد خودم من دنبال مقصد با کسی دیگه نمیگه خب این بچه کده تو این... چرا شما بر چی الان مالشون میده با من مرم اگر دیگه بهت میگفتم میامد اینجا بیکار ای بودی خدا پدرتو بیا مرزه میای اینجا میگی این حرف جدید داره میزنه بعد چی علنی داره میزنه دوربین داره زد میکنه این هم آدم نشستن وسط حرف من داره سؤال میپرسید شما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 سار ها حکامانشانو بزرگ میکنه ببین چرا توش اسلام بزن بگن شما گذشته تون این بود اسلامات مثلا شما عقب افتادیم بابا یارو پاره دیم شیفت کرد یعنی چی یعنی عوض کرده امروز میگه هیچ هویتی براش نظار بمونه مادامی که او تو فکرش میگه ما در زمان اون هاهامانشان از مدیترانه تا مرز چین بر ما بود این تو مخ بچه میشه تو الان نباشه این ذهنش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 چون فکر تمدنی ندارن مردمشون الان مسئله اصلی تو هند مطفو کردن تو خیابونه مودی سراحتن آمد تو تلویزیون خواهش کرده از مردم گفت توفع دهن ننوزید تو خیابون ما بتونیم توریست جذب بکنیم امروز وعده های انتخاباتشون ساخته دستشویی بخواهی که تو پات هند و ما ادراکم به خدا که بیلدونانت میگیم این مردم دنیا دو دستانوان که هند رو دیدن مانکنه که هند رو ندیدن یه سری جینیست داره لباسموز اعتقاد بیو لباسموز مردشون لخت مادرساس اما چه تعملیان یعنی هنو لباسشو حل نکرده اصلا پوشش ام اگه تو اینجوری برای این دختر معرف میزه این رو تو این دختر پسر رو نکرده پوششان خیلی خوبه بر پسر علم که بابا اصلا پوشش فرق انسان با حیوان بوده از اما انسان نخوز که یه لباس علنگی تنمون کنیم امروز فلانگامو لباس تنمون <تصفح> <تصفيق> <تصفيق> این یعنی چی یعنی من فرق دانم با اون حیوان <تصفيق> تو قرآن به آدم و حوا میگه خطا کردید ترک اولا کردید لباسشون رو بگیرید اهل کسا میخواد پنج تا رو معرفی کنه میگه به زیر پوشش کسوه در قرآن پنج بار تکرار امام حسین اون هیروبیر تو اون هیروبیر تو اون گیروداد بچه علی یکتا تا علی اصقرش کشتن تیکه تیکه کردن داره به میدان میره داره لباس عوض میکنه میگه لباس بعد لباسو پاره میکنه میگه من تنم برهنه رو زمین نمونه بعد این کسا رو بایده. بایده چرا رو به پوشش حمله میکنه اون جای گرانیگاه رو پیدا کرده اون تا که تو به چه زبانی با این مردم خاص سر بزنی سراغ همین آقای اینم این هم دیم نماز بخوره یه دقیقه نمازت بگه شما ببتر. می جوابش باشه <تصحنت> <تصحنت> خب بگو ببینم چرت میگن دیگه هندی ها زبانشون دراویدیه همون اول خوب گفتم که زبان دراویدی ملون منطقه است یک شاخه مجزای زبانی هیچ ربطی به هندوروپایی نداره همون چیزی که ترکی هیچ ربطی به هندوروپایی نداره ترکی آلتایی خب اینا شاخه زبان ترکی مغولی آلتایی یه شاخن منم مجبور کرد ببین یه سری زبانها اشتقاقی ان قالب دارن و تو.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 در لحن سخته اما در قواعد ساده است ببین شما تو فارسی برای اینکه بتونی یه فعلی رو صرف کنی دو تا بون حفظ کنی یه دونه بون مزاره رو فعل امر عمر میکنی بهش میدهی یکی هم بون مازی هم رو باید حفظ کنی هم رفت دو تا تو ترکی همونه گد گده میذار گدی یدی یه دونه بنه حفظ میکنی زبان فارسی هم التصاقی یعنی به آخرش اضافه میشه هم پیشوندیه هم به اول اضافه برای همین هیچ زبانی در دنیا به روز فارسی چلمه نمیتونه بسازه خیلی میتونه باجه بسازه باش. شما هم به بون فیل رو یا الفیزان شد روا اسم ماشون یه ببذار اولش برو عجب ماشون برو یا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 چون مثلا ترک هم از فارسه بعد بگم چون فارس هم از ترکه نه تو من این چیز نبیری خب سعیم برای این بوده اون که این زبان خواص حروف درش رعایت شده در فارسی کمتر زبانی ما تو دنیا داریم اینجوری این نشان قدمت یه زبانه و تکامل یک زبانه من درم این چهر تو بیرد میگردم فارسی نبیدم لحجه عربی چهر رو بیرد کجاتون در بیرد این یه گرری هندو اروپایی این سامیه اون آلتایی مطالعات ژنتیکی دا ننش این زبان اون با دور کوهمون دشتمون دررممون شهرمون همه چی همین رو داره استفاده میکن از اینجا جای دیگه رفته <تصفح> از جای دیگه کمتر اینجا آمده ما الان کلی تو زبان عربی داریم استفاده کن به زبان فارسی آسی میزده روونترش کرده کلی مفاهیم رفانی و الهیر الان میتونیم باز... کلمات عربی که وام گرفتیم چیکار کردیم استفاده کردیم این که خواص حروف یعنی چی مثال براتون بزنم این خودش یه دنیاست من برای این شعرا کلاس دارم براشو میگم مثلا حرف شین ذاتن یک ویژگی های دارد یعنی شما مثلا حرف شین حرف آبه نوشیدن فارسی شرب عربی اشماخ ترکی شت عبری ببینید، چشمه تشنه آبشار شما شاید دیگه هم دارین که آره. نمی‌شه حتی روزی که شما شیلنگ و واشرام می‌خواید تا آب تا آب داشته باشه این زودتر وایرال میشه بین مردم. یعنی آیس آب صداش نمی‌ده شور شُر آب. آیس صداش نمی‌ده نه. این باش نشه یا حرف کاف حرف بدیه تو همه زبان‌ها خب ما تو کمتر تر زبان رو ببین شما وقتی فردوسی چرا مانا شده چرا مانده شده برای اینکه اینجوری شعر میگفت و نه کم ماش شاهنامه سرو نداشتیم این ویژه یکی از دلایلش ببین شما نکون صدا خرج خرج چه کمانو خودش خودشو این چیکار کرده شاه کارو کمان چاچ یه منطقه‌ای تو افغانستان ظاهرا افغانستان کنه میشه از اونجا کمان میوردن اون موقع کش نبوده چوبه بوده که اینو پارت می‌کرد این چوبه باید خم میشده و وقتی دوباره صاف میشده اینو پرد میکرد میگه برو راست خم کرد و چپ کرد راست خروش از خم چرخ چاوچی بخواست ببین خرچ خرچ رو میشنه عربی هم این ویژگی داره بعض از زبان ها رو شما گوش میکنیم میگی این خشن این زبان مثلا آلمانی بهت بگه دوستت دارم ترسی. همون که گفتم ترکی زبان احساسات، زبان روزست، زبان گریه است، زبان چیزا، توش هست زبان فارسی واقعا شیرینه ما ببینیم من خیلی با خارجی کله دادم، ما فارسی حرف میزنیم فیلم کنیم شعر داریم میخونیم رو زدم دیگه اصلا ما خیلی از کلمات، جملاتی که استفاده میکنیم آهنگینه، وزن شعری داره خود متوجه نیستیم، عادت کردیم میری مترو نوشته دسترسی از طریق پله برقی ممکن است بشنو این چون حکایت می از طریق پل برقی ممکن است تو خیابون رد میشی نوشته زندان رجایی شهر کیش شعر زد زندان رجایی شهر مفعول و مفایی اخبار رو مرور میکنی نوشته رونمایی از لباس اول نساجی منو تو آن دو خطی ماری مبازیان به ناچاری اگرچه باور من زاغاز لباس اول نساجی مفاولان فعلاتان ف. آقا میری استخ استخم دست دستارت بر نمیداره این وزنشه یه تابلو نو در قسمت کم امق شنا ممنوع است این کوزه چون من آشق زاری بوده است در قسمت کم امق شنا ممنوع است مستفعل مستفعلا مفعولان ف انقدر این زبان فارسی گوشنواز و خوش آهنگه، که شعر نگفتن توی سخت‌تر از شعر گفتنه هر چیزی که ما از دهنمون در بیاد یهو خود به خود روی وزن میشینه مگر نه شما هم مثالی بگویید جهانا چه بد مه رو بد خوب جهانی شما برید یه دو جا رو برید ببینید به خدا هستم چی چین رفتانیم می، حرفتان میترسیدیم خب اصلاً یاد اویییی اصلاً لحواد و شیارون چی چی میگه بعد اینا برای اون کورئی امروز داره برای تینیجر من شد. برای دختر پسر ما داره فرنگ میکنه اون مثلا بیم؟ این فیلم ها... چرت گفتن ترجم. پانا کلا خره <تصفح> میخواد پان فارس باشه، پان باشه، پان باشه پان... پان قبول داره خره <تصفح> اینجا خورده ادبی صحبت میکنه. این یه ژنتیست امریکایی یهودی اشقنازی خوب من رفتم دنبال اون توییت‌های نتانیاو کلی مطلب که شرور گفته پیدا کردم گشتم یه چیزی که یه یهودی یه علیه حرف بزنه ببین این سخت بود اینم آخرش یه پدرسوخته بازی در میاره ها بیمار حضرت حداقل جواب نتانیاو رو خوب میده اینا آمده این کار جنیتیکی انجام دادن روی یهودی ها و, غیر و منطقه شامات اینا جنیتیک اینا رنشونده میگه رنگ سبز مثلا قرمز آفریقاییه سبز پوزی میداره بینیم من برم جلوتر تو بینه هزاران نفر سر و سر این سیاره مطالعه کردیم اینا رو به کامپیوتر دادیم این نقشه رو برای... برای اینا داده حالا من برم جلوتر خب خب ببینید مثلا میگه عرب زبان ها اینجوری هست به وضوح سبز و اون بالا قهوهی تو چشمه درسته؟ خب بعد وقتی شما هرچی به سمت روسیه برید کامل این از بمیره آبی میان و یعنی اینا دیگه خیلی تفاوت دارن واقعا تو چهره ما اینو میبینیم دیگه 420 میلیون نفر تو دنیا عربی صحبت می‌کنن اینجوری نرم مرا مراکش اینجوریه می‌بینید زرد خیلی چه پر رنگ عرب شدن می‌بینید عرب شدن سبز شما اینجا اصلا خیلی کم بالرغم من سالم بودن رفت ازدواج کردنم محل کلی سادات داریم تو درست شد این ها. این عرب شده این آفریقایی یمن و عربستان سعودی میاد چی میری؟ این رنگ سبز بیشتر میشه؟ کمتر میشه؟ من این ها توی تدوین فیلم بیزرم اصلشو بذاریم کاملشو بذاریم قشنگ ببینیم حتی توضیحات من رو شام این خیلی مهمه منطقه شامات این شاخصت شما داشته باشید این, این پایین هست چون زیر نبیس این رنگ زرگی همی پایین ها نه مهمه خب سبز و قهوه این ستا هستن این زرد لیموی بهش میگنیم چی و این قرمز خیلی کمن یعنی یه رقای از آفریقایی توشون میده خب طبیعیه دریا بینشونه یه کوچی که بعد اون رد میکردن از اون سهرهای سینا میادن چونی لزومی داشته رد کنه بیاد اونجا اون تو آفریقا رود نیلش هست ببینید برای چی باید جا به جا بشه این کوچ و مهاجرت فلسفهش خیلی مهمه. دلیلش مهمه.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 ها oh, yeah. آین مهر ورزی میسراییست مهر مال ایرانی بوده نکنه خرشت پرستن مانا خرشت پرستن دارن هم بدونی همچنین لفظ جایی که مهر بوده اولین جاهایی بوده که این ها ساختن و شروع کردن این از اون جاها شروع شد لفظ شهر و لفظ مهری یکی میست این تیکه باریکه we ها عربتر شدن تا مراکشی دورتره near و top that نزدیک saw in ها؟ which took a bit out of برم جلوته خب این،, این توی نقشه اینجا میشه من که ببینید خب برم حالا کار بانمکی میکنم یه فکر کن سبزش زیتونی بوده که مال منطقه مدیترانه بوده این قهوهیشو از سمت ایران گرفته که نخوده بعد زردشان رو چی گرفته این همون غذای هموسه سوریهی هست و یه غذای مثال بزن بعد اینجا حرف قشنگی میزنه میگه اون چیزایی که اضافه شده بهش اون دیگه ادویه است اون اصلا اثری مثلا توی اندازه و حجم غذا نداره من میرم جلوتر اینا یه مقدار سیر اضافه شده یا ملاتم می‌خندن خب. ببین این شام قدیمیه اون سه تا رنگی دارید میبینید الان شام امروز فلسطینی امروز امروز میذارید کنارش ببینید؟ ببین؟ سه هزار و هفتست بوده خب، این, این سه تا شاخص های جنتیک شده خب، حالا بریم دلو این الانش یه خورده این قهوه یه بیشتر شده، دو سه تا رنگ کچیک اضافه شده این فلسطینی الان با سه هزار و 3700 سال پیش هیچ بردی نداره ساکنان اصلی اونجا همینا یعنی ببین علی تو مسلمان‌ها کسی نمیگه مثلا من دلم امام علیه میگه برای اینکه بزون مناطق زرمنسونو بگیره ولی میگه آقا بیاد یونسکو بیاد اینجا نگاه کن ما اینجا مسجد داریم نشوند مال ما بوده پس ما مسلماناص خوب کسی تو مسلمان خب؟ یه کاری ران کنه بابا یک 8 میلیارد مسلمان یک کمپین جهانی درست بگه آقا یونسکو بلند شو تو بیا از ما ژنتیکی کن البته معلوم بشه که واقعا اهل اینجا اینا مگه ادعا ندارم که مال اینجا بودیم بیاین بیای اشنازیارو ازشون چیز بگیریم هر کی خورد اینجا بمونه مخلصم ازش باشه بره <تصفح> <تصفح> <تصفح> نمیتونن جهانی همه رو چیز بکنن خب باید ما کار کرد بله بی خبر بشه ما کار مگه مخطوطات بهرونی مگه تو قائم نکردن کلی <تصفح> تورات تو این انجیل تو بهرونیهت پیدا شد که نشون میداد کلی تورات الان تحریف شده نموند گفتند اینا در دسترس بشر هاگی باشه آسیب می بینه و چگونه شون کنیم؟ باب به دمای اینو هم چند د کلوین بعد نگهشون داریم کلنا الان بودن شدیو سرخ کنه قایم کردن هیچ کسی حق نداشت. میگم میراست بشر را بیم و میگه خب چیم؟ گم خودم ازش اسکن گرفتیم روستیم. آب حد در سوختن. نه تردیدشون اینا رو از کجا آوردند مختوتات بهرهن می‌یو تو. تو؟ وسعت جنگ اسرائیل با عرب حمله کرد از موزه اردن دزدیم بودن. برنامه داشتن وسط جنگ موضر و خالی کنه اون ن از دستکش بعد اینجا نسخ های خطیم و دست این با چاق اون با چاق و در اصل ژنا فلسیی های امروزی شبیه به ژنا مردم باستانی شام در 3700 سال پیش است این سه تا رنگو دیدید دیگه قهوه‌ای، سبز، اون پایینی هم چیز چی سفید بگیم زرد کم رنگه. خب این این ذهنتون بمونه. ببین. داریم جلوار. اینجا به همون توییت نتانیاهو میگه این مد که چرت و پرت میگه. خب. واقعا خب. من اذیت می‌کنه به دیگران آسیب میرسونه الان وقتش که حقیقت رو به طور ژنتیکی روشن کنیم و آن رو منتشر کنیم. چون موضوع به طور حیاتی مهمه. یکی از جنبه‌های جالب علمی که موقع چیز غیر پیش شده پیش بیاد. مثلا یه توییت از بنجامین نیوتن داریم که به نظر این روزها وقت آزاد زیادی داره. Anything, اون, توییت اون توییت کرد که مطالعه جدید از دی ان ای به دست اومده. یک سایت باستانی فلسطین نزدیک اشکلون در اسرائیل رو تأیید میکنه که از کتاب مقدس میدونیم این که منشأ فلسطینی از جنوب اروپا yep. اما این حرف بار معنایی زیادی داره اون سیاسی داره پاشید برید در اینجا بیرون چون مردم میدونن که کلمه فلسطین در عربی از یک کلمه رومی گرفته شده منطقه روم شرقی بوده منطقه بسیار مدیترانه، بسیار جای خوش آب و هوا کشاورزی همه چیش درجه یکی ای میجه نه تانایی جوری بانه بودم نگاری مطالعه جنتیکی ثابت کرد که مردم فلسطین امروز از اروپایی ها من گرفتن که خب این حرف میتونه پنیمده سیاسی زیادی مخصوصا تو حوضه مالکیت زمین داشتهاش بیاید یه مطالعه،, مطالعه نگاه کنیم بیاریم واقعا چی بوده اصلش رو آورد بنده خدا فلسطینو دوره آغازین اصل رو آهن بررسی کردن <تصفح> 3300 تا 3700 سال پیش توی این مطالعه محققان دی رو بررسی کردن و متن دقیق مقاله اینو میگه ما دریافتیم که هر سه جمعیت اشکلان بیشتر منشای جنتیک خودشون از منابع محلی شامی دارن دقیقا نکسی که اون مزخرافیکم توییت کرد نمیدونم نیتون این جمله رو ندیده یا ازش رد شده با این حال این همون حقیقتی که ما گفتیم 3300 سال پیش هم همینه 3700 سال پیش هم همین بوده من گیریم میزنم جلو نماز شد توییت بعدیشون رو میاره میگه خب اینم یه سای این مثلا انجمن یهودیان استرالیا هم وارد بحث شده گفته واژه فلسطین به معنی مهاجم است یعنی نه بیرون اومدن اینجا <تصفيق> <تصفيق> یه هر موقع اینجوری اسم به نام بیگانه خارجی میذارن یعنی ما برنامه دارن نتانیاهو هم ادعا میکنه که فلسطینی ها از شبه جزیه عربستان به سرزن استرالیمان خب لا مستد فقط گفت جنوب اروپا بعدی من میشه به جزیه عربستان اونم هزاردان سال بعد ولی ما الان دیدیم که این کاملا نادرست جنه جنفل... جنام فلسطینیان نشونه که ریشه های اون امیقا محلی و شامیست واقعا اصلا مسیحی هاشون شبیه مسلمان هاشون دیافا هاشون من لبنان سفر بکنید این چهرا ما الان تو لبنان کلی مسیحی سید داریم اینا اجدادشون شیه بوده یار که داش کردن تقیه کردن دیگه تقیه موندن لبنان <تصفيق> <تصفيق> خب بریم جلو خب آها این خیلی جالبه یه هویی رنگ قرمز اینجا زیاد شد می‌بینید اینا کیا استرالیا می خودش داره میگه یک باره اینا کجا اومدن اینا شامی نیستن بعدش بعدشو دیگه اینم ادامه نمیده که قشنگ بره تو اون رنگ آبیه اون ته ته اون اشکی ناز درست فاهمی؟ ببین چی میشه؟ یه لحظه نشون داد ببینید ببینید بغل قرمز خب خلاصه اینا انقدر واقعی هن نیستن یعنی مطالعه جنتیکی انجام شد و دقیقاً عکسش رو میگفته اومده همونو توید زده مین چرا چون خیارش راحته نه کسی اکانتشو میبنده نه کسی تو اینوریا میره چیکیک میکنه آخرش هم یه جهوت تو امریکا اومده بدبخت پیدا کرده فهمیدی <تصفح> یک اونوری چقدر یعنی باید؟ از آقا اگر ما صحبت امروز داریم شه میگه با ساهین اسویر میچنگید هر کسی حد کاری هستش برنه خیلی کار داشت شما از یه پزشک و یه زبان شناس و یه دونم شاعر و فرنگ و باستان شناس بگید همه ی اینا میتونه گزارهای باشه یه من رفتم موزه داراباد اکسیدرمی می‌کنن، یه کج اونم رو خوش می‌کنه. من افتادم بر می‌گیشم می‌میادن بیرون مسئولش ما رو دیدن اونجا. این نون‌پریر هم دستش شد بنده خدا من سر صبح رفتم با همدیگه کلکرر دادیم بالا با اون نگهبانای اونجا. بعد بابا اونجا چیکار می‌کنی ولن خوشحال شد بنده خدا گفت گفتم من سخنرانی دارم بعد برم. اصلاً یکی از دلالیام که رفتم اونجا اینکه تنظیم کردم که سخنرانی تو منطقه گفتم اونجا من دوستان برم ببینم ببین شما یه نکته خیلی مهم میشون گفت. مثلا ما یه سری گونه‌های جانوری داریم، خب، که مثلا فقط توی جزیره بومسوا هست. یه توم به بزرگ، توم به کوچیکه. من گفتم این اسمش مثلا فارسیه این اشتباهه. میگفت اینا خ... اینا بعدن میتونه مبنای دعاوی حقوقی باشه. درست میگفت. ببین یه نفر کارش به مراد جانورشناسه، چی هست اسمش رشته‌ش چیه؟ خب، اما یک جایی میتونه یک خدمتی به امنیت ملی بکنه، که جا دست اون لحظه نتونن درست شد هر کسی هریت و دروغ می چطور جله تاریخ میکنن چطور؟ این لاله های واژگون ما که مال زرووس هست روی ظروفی پیدا شد در اسرائیل خب بعد اونا از اون میخواستن چی بتراشن؟ بر خوشون هویت بتراششن دقیقا برعکس عکس چرا چون یه شانس آوردیم این لاله ها فقط تو زدرست در میکن و گفتیم این دقیقا نشون میدهیم. اونجا مالا ما بوده اگه اگرا حرفی هم داری خب ما اونجا بودیم درسته برای شمامون بلند شد تا اونجا رفته یه دست لیوانم برداشته با خودش برده گرفتید بیا او میخواست از اون برای خودش هوال از همین جا پیدا شده ها متاسم توسط با چاقی ها من بر میدار میاررم اونجاعلکی توی بازی از زیر زمین دوره می کشم میونگردیم قا می کشف بیایم به ما چه تمداد چیکار کردیم فند هیچ چیزینه حتی یک چیز عجیب شما، هنچین پادشاهی از سلیمان و داوود که گفته میشه یک پادشاهی کاملا چی بوده؟ محلی کوچک بوده به خاطر همین شما تو نوشته های اخیط مثلا ما میتونیم پادشای رومون نگیم مغولار اسمشون رو اسمشون بالاخره بردیم که از بحثایی که امروز جدی خود سهی نستای سکولار دارن میگن چرا از سلیمان و داوود اسم نیجای دیگه این پادشاه، امپراتوری که اثر گذار باشه نمی‌دونه فلاموشه. متسلق دستشونه. اینا همیشه این سیستم مثل سا انگل به امپراتوریات شست می‌نن. اول به حکومانیش رو شست می‌نن. بعدش شست به مسلمانها. بعدش شست می‌نن به هلندیا. دقیقا هلندیا امکان کشور گشایی دردن کنه. استعمار دست هلندیاست. بعد میره دست سpanyolیش می‌نن سpanyol. شجاع زیر ایبری می‌نن. بعد می‌نن هلندیا. بعد میرن ان انگلیس. دقیقا انگلیس. الان آمریکا. پوزشون زمین و جهود دارن تو دنیا. هاف میلیونشون آمریکان، اواش میلیونشم فلسطین اشغالی. باقی هم 20000 تا 50000 تا 7000 تا 8000 تا کشور دیگه. عددی نه. آمریکا و فردا چین بشه ببینی چیزی کوچیک کنن برن اونجا شروع کردن قصه تراشیدن که یاد میشه 10 سال پیش سخنرانی براتون گفتن. دا الان دارن میگن ما اون 10 سپت گم شدمون رو پیدا اینو میگن هرجوری بخوام بگیرم میگن ما دوازده تا سپت بودیم. دو تامون یهودا و بنیامین کجاست. اون 10 تا دیگر هر جا رو میخوانی بگیرن میگن پیدا کردیم رفقامونو اونجان بعد جالبه همیشه هم این دوتا دنبال اون دهتا میگردن اون تا نمیرم چرا دنبال این دوتا نمیگردن اونا چرا اونا بیشتر اونا باید داد بزنن فران الان دارن میگن ما در زبان ژاپنی و عبری اشتراکات دیدیم اینا اومدن رفتن تا تو... کلیپاش هست آقاینا رو یه جستجو بکنید مطالبه بکنی. کلی... بعد چی میگیم میگه اینا به نام ما که ژاپانی ولادی سعی میکنیم اتا یعنی تو بعد ما میگیم ما تو ابری مثلا آتها یعنی تو میگه خوب چرا یهودی و عرب انت خو نیهمو تو هبرایگ اناجیمی تو هاتون ای پای آرو بی کریستا ヘブライ語の朝、それはあなたと10族。失わ 10族 ببینید چطور میاد ریشه می‌سازه برای خودش چون نداره ما ریشه های خودمون و دست خودمون داریم مش یه جایی برای که نمیفهم دشمن امروز دلزنه یک چلامه هر چیزی که هویت تاریخی ملی مذهبی ما امروز بزنه بازی در زمین اسرائیل است حتی اگر درست باشه همین شد حتی یه حرف هم از درست مثلا فلان عادت بد مثلا ایرونی‌ها داشتن ما می‌دونیم مثلا به بفرض خب الان گفتنش خطا جز راست نباید گفت راس نشده. ما اینو نخواستیم. جون مادر اگه چیز بدن به دیگه فقط راستشو می‌گید. ما بعد اینجا قرآن تعریف می‌کنه از کوروش. چون ما اینجا بودیم مثلا نه آقا مثلا کافر نبوده. ده. قران هم این کارو کرد دیگه. انقدر علیه علیه کوروش نه چه برای سر سلیمان آوردن سر پیغمبر خودشون بلای آوردن که قران داره میگه و ما کافر سلیمان. قرسل ما کافر نبوده. خیلی بده ببین چی پخش شده بوده که و ماکن فراز سلیمان جلسه بعدی میره من یعجوج معجوج چیز رو گفتم تو حالا میریم تو بحث علوم غریبه که اینها روش دست گذاشتن و این شیاطینی که به کار میگرن چیه و اون هفته داده جن سلیمان چیه اون همیشالا جلسه بعد تحجیلت فراز و اون زمان سرات